اللهم صلی اللهم محمد و محمد عوضو بالله من الشیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم صبح شما به خیلی عرض عدب. احترام خب ادامه جلسه قبل رو ما بدون هیچ مقدمه سریع شروع بکنیم که بتونیم بخش امروز تموم کنیم و هرچی بیشه تمومش میکنیم خب داشتیم عرض می‌کردیم که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 امیر المومنین قطعا حضرت زینب سلام الله علیه اون دنیا از بالاترین درجات رو دارن اما سیده نسا اهل جنب حضرت زهر و سلام الله علیه هاون مال ایشونه قطعا حضرت مریم جایگاه بالایی دارن اما این خصیصه مال حضرت زهر حالا توضیح میدن اساسا اگر قومی هدایتگر نداشته باشه زبونش درازه ظلم بهش شده میتونه بگه آه منم اگه پیغمبر میومد برام و میدیدمش منم ایمان جلو جلوم هم چهار تا حساب نزید اشتها بشه آه دور رواب بشید شطرت تو کوه بیرون بکشید ایمان میاریم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 پازا سهران مستمر گفت یه سهر مستمریه که دائم هممون داریم میبینیم گردن نگیرف ناغه صالح وقتی اتفاق افتادن و اجاز بعدن که کشتن گفتن این سهر بود اون موقع نفهمیدیم بعد چند روز که فکر کردیم به نتیجه رسیدیم این سهر حضرت موسی اصلا داخش دعا شد فران برگشت گفتیم بزرگ خود شما جا دوگر راست رئیس فتونه، رئیس اتحادیتون رفتید آوردید اینجا به ما هم نگفته بودید فکر کریم من متوجه نمیشم انا رب بکنم پس اگر قومی هدایت یه نداشته باشه زبانش درازه همین ثابت میکنه که پس یک امامی باید باشد حجت را آشکار کند و تمام کند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 در سخنرانی که به امام آهات نیمهشی قبان کردم همینو توضیح دادم اونجا رو برید حتما گوش کنید پیوست این جلسه است که چطور میشه امامی که قایبه اینطور حجت آشکار بکنه که میکنن آیاتش خوندم رویتش خوندم مثال های عینی از زندگی خودمون زدم امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ من هیچ پیانبر یا گرامی تر از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 متناسب با اون زیست بشری انذار میدادن معاد حتما داشتن از بهشت و جهنم گفتن اما نه انقدری قرآن تاکید داره قرآن آخرت رو خیلی باز کرده هیچ کتاب دیگه اینجور نیست شما ادیان شرقی غربی بالا پایین همه رو بگردید ابراهیمی غیر ابراهیمی هیچ کتاب اینقدر راجب بهشت و جهنم صحبت نکرده حالا بهشت که دیگه انذار نیست راجبه جهنم همه توی اینقدر صحبت نکره بهشتم سر جا خودش تو قرآن ما برای دوزخ هفت تا اسم داریم حداقل نقل هفت منو. هر کدوم چقدر تکرار شده به ما کلی هر کدوم تکرار شده مثلا حاویه به گودال آتیش گفته میشه یعنی نو آتیشش هم نگه میگه اون تو گیر میفتی جهیم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 اکسیژن میگیره بیشتر میسوزه این آتش نشانه یه تا یه حدی از آب استفاده میکنن بعد اون دیگه نه از خفه کننده استفاده میکنن اکسیژنشو میگیرن بر حضرت ابراهیم هم چه آتیش درست گرددن؟ انقدر این آتیش گسترده شد میگن روزها اینا چوب جمع کردن ریختن رو هم وقتی این آتیش به اوج خودش رسیده بود نتونستن از بشن با منجنه پرتش را دور.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 حروف جا بشه بینش نوع شکستنه عوض میشه حشم یعنی نون تیریت کردن حاشم جده پرمان برمی بود که از خودش میزبانی میکرد از مهموناش که میمادن حج خودش نون تیریت میکرد براشون هزمه شکستنی که حزم کردن له کردن امیرانوان بر از زهره هم نفس استفاده میکنم یه امت توی پی آنبر وقت داری دفت میکنه زهره رو امت تو او رو حض شکستنی که قضا چطور هضم میشه له میشه اون یه نوع شکستنه این مطمه آتش است که بغش هم همینها هستم من نمیدونم این اصلا ویژه که زبان اثر ریشه دو حرفیه در عربی حرف سوم به اون حالت میده بر گفتم یه جا من راجع حلول خون و مبارک ابوالله در کربلا صحبت کردم اینا نفهمیدن چی گفتم یه ولش کن اصلا اینکه جواب اینا رو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 اون آتیشی که شوله آبی داره اصلا دیگه دود نداره جهنم خودش که دیگه بحث کردیم یعنی چی توی سخنانی دیگه ریشه جهنم ریشه ابریه برقی گفتن فارسیه جهنام بوده یعنی چهنام یعنی نامی چاهیه که تو اونجا میندازن نزن من با اینکه که ما به قول ایرانی هستیم و میدونید روی زبان شناسی من کار کردم علاقه خیلی زیادی هم خودم دارم یعنی عدقه بر مطالعه من این خیلی بعید میدونم جهنم ریشه ابری داره گه هنم دره بنی هنوم دره بود که اونجا آتیش درست میکردن کودکان خودشون قربانی میکردن برای ملخ تمی سخن چیز توضیح دادم مفصل این که آخر زمان و یعجوج و اونجا گفته آرام آرام بود چون عرب ها گه نداشتن این به چه اینو بدونید اصلا تو بحث قرآنی اینو بدونید قرآن از کلمات رایج استفاده کرده هیچ تعصبی نداره چیزی اسمش مد باشه استفاده کرده خیلی داریم یعنی الان من نمیخوام وارد اون بحث از بحث اصلیمون میریم متعدد داریم اقوام مختلف بوده اصلا قوم ریشه بعضی از این کلمات که استفاده شده پیگنیسیه کفرآمیزه اما خوداست بوده میگه الان که دیگه مردم به معنی تدینانه ازش استفاده میکنن بهره برده مثل همه آمین ما در ادبیات دینی ازش بهره میبریم ایده قطعه کنیم مسیحی میگن یهودیان میگن آمن این ریشه برید به همون خدای آمون مصر برمیگرد از اونجا وارد زبان عبری شد آمد وام گرفته ویش روش برمید بعله من در زبان عربی اون شوهر داره استفاده میشه ریشش چیه یه بط اتد اونا بعلا نتذرون احسن الخالقین اینجایستن اشاره میکنه قراران که اون در عربی اون شوهر استفاده شو. به خاطر اینکه اون بط مالک مالک دونستن تو فرنگ مرسالارانی عربی هم همین بود شوهر راه مالک اون خانواده و زار زندگی میدونستن در ابری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 به دنیای دوات مصری اعتقاد داشتن دنیای زیر زمین گفتن قبر می‌کنیم یه نفر میره زیر زمین همونجا یه دنیایی هست یه زندگی هست بعد مثلا موجوداتی که زیر خاک میرن و با اونها مرتبط می‌دونن مثلا مار و نمی‌دونم سوسکا و حشره ها و اینا رو قون بر میشه کاملا متاثر از اونه در بین ما ایرانی ها رایجتره تا حدی که بسیاری از پژوهشگر و ادیان میگن که از ایران راه پیدا کرد اینا یاد گرفتن هم مفهوم شیطان از ایران رفته تو ادیان ابراهیمی از نظرین ها هم مفهوم آخرت و دنیای دیگر پربی راه هم نیست درسته شیطان همون واجه, واجه سیتن و ستون خود ماست هم سیتن فقط یهودی سوشی تلفظ میکنن خیلی وقت ستون استون ستنه داره. دیو دعو با بل شد دیابل او سلو یونانی گرفت شد ابلیس همون تو هم همون میگن دیابل دویل همینو یک ریشه داریم هزار هشتصد سال دو هزار سال پیش از مسیح قیلیه سه هزار هشتصد سال هزار سال پیش میترایست ها خورشید پرست بودن اصلا قائل و تقدس خورشید بودن اینجور بگیم دقیق تره در مورد روز قیامت صحبت کردن آتشگاهی رو در اون توصیف میکنن که انسانهای نیک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 بسته به خوبی بدید. ریشش هم بعید نیست به این قرآن اشاره داره میگه از قال ابراهیم لعبیه آزره ما آزر بای جان داریم آزر آگر آیر آتر همینه یعنی آتش تو فرنگ ماش تش تس همه از همین ریشه گرفته شده رفته احتمال زنده در آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش این رو بیشتر کرده یا و در ماجرای سیاوش هم می‌بینید بینه برای اینکه بفهمن که راستمی که دروغ میگه میگن بیا برو تو اتتیش اگه راستگویی نه ترس از این ایارری بوده برای تشخیص حق و باطل یکی سوگند می‌دادن یکی همین سوگند گند یعنی گوگرد بوی گند یعنی بوی گوگرد سوگند یعنی آب گوگرد سو به ترکی یعنی آب م گفت که راست میگه بیا آب گوگرد بخور ببینیم سال میمون یا نه سوگند بخور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 در دژمت پندار او بررسی میشه در دوزخ همین دوزخ گفتار او بررسی میشه و در گام سوم به دژوبرشت میره اونجا کردار او بررسی میشه و نهایتا وقتی بررسی شد میرسه به دوجنخ دوزخ هم از همین کلمه طولا گرفته شده یعنی جهان زشت که در فارسی معادل شد با آرام آرام با دوزخم خب من همه را تقریبا برای شما بررسی کردم وقتم نبود بیشتر از این بخوام بگم وارد دیتیل بشم پس وقتی نگاه میکنیم هیچ دینی به اندازه هیچ کتاب به اندازه قرآن تذکر راجب قیامت و آتش جهنم و دوزخم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 تنبیهشون هم میخواد بکنه میگه مردمی رو از طرف دیگه دنیا بر سر شما فروت میارم همه چیه همین دنیا قرآن اینطور نیست میفرماد این یه عذاب عادیه عذاب الاکبر عذاب اصلیه اون بره همینجوره حالا فعلا لسهری شما لطفه فهمیدی پیش قضایی بخورید داشته باشید می تو موجه زلغرن هم همینه میگم که نه حالا یا لا ما عذابشون کنی یا نکنی جواب میده چین یا اینجا چی چیه اون ور اصلیه. چون اصلا حیات هستی بلی آخرت ها خیرون و ابقا عذاب اینجا چیه؟ دیگه طرف اون بزن میکشش دیگه دار میزنن تیر بارون میکنن میبردیم اونجا نه اونجا رهایی نداره بلکه قرآن برای اولین خو... بار از خلود در آتش گفت میگه ده اصلا در خود ادالت الاهی سازگاره من گفتم حالا اینجا کوتاه بگم کامل بشه بست شما مثلا یه که نخ بردارید یه تی که پلاستیک بردارید فاز و نولو به هم وصل کنید بچی نمیشه چون ذاتن رسانا نیست فازونو و اگه شما بزنید فیوز میپره دیگه نه هر کار کنید چیش نمیشه؟ رسانان نیست یه سیم نازو که مسی رو بس بکنید داغ میشه سریقت میشه اصلا فیوزی که قدیما فیوزایی که سیم بود من یادم برق میرفت عمید. تراما نمیرسیم برق رفتی یا فیوز بریده میمهنم نگام که سوخته ای، یه تک سیم برمیداشتن میذاشتن رشته سیم بی میذاشتن نمینام الان سیستم شجوری بعد به اندازه ای که ببینید داغ شد قد شد یه دی تو جهنم اینجوریه یه دیگه کسا آتش باشون میونهی نداره ببریشون وسط آتش چوچوشونه نمیشه همین هم هستش به اشتیار اون دنیا از لبه جهنم رد میکنن این که میگه وارد بر جهنم میشه من خیلی ها متاسفان از عزیزان خطا کردن ورده در زبان عربی به معنی داخل شدن نیست دخلای این داخل شد ورده یعنی لبه یه چیزی بایستی این که میگه همه تون در جهنم میشید ال... آی قرآنه اینجا کلی شبهه شده آقا یعنی چینجا احلبه چی میشن نمیدن فلان چی میشن لبه جهنم ردتون میکنن رده اون میکنن چرا اون آتیشش لحی بشمار نمیگیره اگر خوب باشیم اینو با آتیش تزاد دارد میونه ای نداره ندارد مثلا پلاستیکه یه دون سیم میشن قط 6 سال پدر سوخته کردن تو دنیا قط ش سال هم داغ میشن بعدش داغ شدن چی میشه؟ قطع میشه خوشومش به برو بشه میران بشت بعضی یا ال هم بخاری برقییم بزننی چیه می سوزه اون می حالم میکنه برم اصل کردم. بهتره بگیم جهن... وقودها الناس و هجاره خدا می اون دنیا آتیش جهنم شمره یزیده با اون بقیه رو می سوزونیم خوده لامثبش elementه وقودها الناس و هجاره زغال سنگم می آدمم میندازیم به میزانی که شمری می سزی. به میزانی که یزیدی می سزی. چند دست شهم رو داریم؟ قاید ببینیم شهم بودن یعنی چی چند دستت یزید داریم؟ ببینیم یزید یعنی چی چند دست اگره و اگر و اگره و اگره و اکسه و اگر اگر اگر اگر اگر اگر از اینا داریم؟ برو ببینیم فلانی ایرادش چی بود؟ اینقدر بعده عذاب جهنم برش داده شده بعضی رو سریح در قرآن گفته شده بعضی به اشاره شده با تیکن ناخته خدا بعض رو در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 یه ما سر در میاریم میگه من مدیریت کردم بلد هم خودتون نا... آبود اصلا بایل بقیه خودتون آبود میکنی دیگه چی بگم بقیه من در تو دارم عرف میزنم نکنید مبنا تو مذهب ما فرمن الریاست اصد بر این که باید دنبال یه نفر بوده زور همین چند وقتی شون جلسه بود جالبه بوده بوده گوش کنید خیلی عجیبه قدیره رو باید بفهمیم یا نه؟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 ان الله اینطور نیست یه خورده دارید بازی در میارید روایت داریم عهد شکنا در جای جهنم یک جایی هست پر از دست دست‌های قد شده است میان اینا چیه میگن اینا عهد شکنان اینا بیعت شکنان یار جانم خودش قصه اید اولاد عبدون آقا نترسید مردوم چرا نترسونم خب هست دیگه بیم سر اینجا این جلو آقا یا دره نترسید بزن برن تا چای جلسه ای بودیم صحبت یه عزیزی شد از مسئولین سابقه بخشیالا تو سپاه بود ظاهرن اینطور که میگفتن بباید اینا کلی نقشه کشیده بودن ما چجوری به این بگیم که ناراحت نشه اینجا مثلا نقشه میکشنم برای تویدی معارفه دیگه چون ویل نمیکنه لامستر چسبیده شروع میکنه رایزنی کردن نه من نه تکون بخورم با همین میخواد محشور شد یفتیم چی بگیم چی نه که معمولا یه جای دیگه بر طرف باید میتراشن و برش جلبه میدن آقا اینجا الان به شما لازمه نیازه اصلا تنری کار پنچره و های یه شروع کردیم حرف زدن رو که مثلا الان دیگه یه جای دیگه اخیرن الان حضرت آقا فهموده اینجا عرصه مهمیه مثلا نبینم چیه شما اصلا صحبت ها به انقلاب گوش همه جا مهمه <تصحب> والا خودا ما مهمه شبک... شب... فضا میگه من رهبرم شده میرفتم رئیس فضا مجازی میشدم خب اونجا مهمه صنعت اقتصاد نظامی همه چی مهمه کدوم مهم نیست اینو شما نمیدونید من میدونم که اداره به اداره چرخیدم هر جا میرم مثلا اینام روایاتش احادیثش های امام آها در مورد اونجا مثلا میرید اداره اصلا منابع طبیعی این رو کلی رو باید آیه در مورد درخت و نمیدونم جکو جونه برای چیز رو باید مثلا حبس ای این چیزاست اشکال هم درست کل زیست همینه باید متعادل باشه راجب همین کلی ما هر فرص براتون که اصلا که اشکالاتی دینداری ما اینی که متعادل نیست فقط سراغ دیویست داره باید میریم میگه ما داشتیم آماده میکنیم شرایط برین بند خدا میگیم بو بر میگه خدا شاهده این سر رسیدش αρومیز ورداشت بلند سری کو ماجوجی من برم همین ما گفتیم خیلی لخت گفتین قرار نبود این جدی نیم ساعتی بعد ما مقدمات فراهم کردیم گفت آقا رست رک بن بگید میگفتیم حالا به نظر ما آره بریم مثلا اینجا گفت سر رو برداشت گفت فستبربل کعه فراتت اوتگرافو این دیگه شاید کله‌اتوزان که حالا یا مترو شما می شه کله‌اتوز. گریه میکرده قرآن آورده چه در اتاق برای باز کردیم چه خبر گفت این چیه منو میخواهید بزنید فرمانده فلان میخواد منو بدبختم کنید نامد منو تو رفیقیم آدم تو رفاقت این بلور سر رفیقش میاره میخواد منو معرض سوال و مسئولیت قرار بدی مگه من چه چیزم تری بهتون فروخته بودم نامردا گریه قرآن وسط میبینی دوتا دو دوتا فضا دو اینجوری نگاه کن بیمیل میشی حالت به هم میخوره انگار ببخشید کثافت گذاشتن جلوت من خودم قهوه خور نیستم کلا یعنی جنبش هم ندارم مگه یه خورده به من یا سه روز خوابم نمیبره اصلا یک جایی ما رفته بودیم برگاش گفتش که قهوه میخورید گفتم که نه از شما در نکنم همین چی میرزه هم سیستم یا یعنی از این کافی میکس ما میتونیم بخوریم با ورکونه پودر همینج آماده است اینا که قهوه چهل خانچنانی و بعد گفتم گو آقا این ویجاست ها گفتم یعنی چی میزنم همش زهر مار زقم چه جوری می خورید شما اینا رو بعد شوخی هم کردم گفتم میخواد خودتون رو با جهنم آماده کنید و از الان زقمو تست میکنید و آفر گفتم نه این ویجاست میدونی چقدر پولش گفت والله واسه چی داره توش گفت اینا تایلند اومده گفتم بیاد از تایلند فرق داره گفت بابا مرد حسابی تو این کاره نیست من نه نیستم حالا بگو ببینیم چته گفت اینا رو میدن دونای قهوه رو فیل میخوره خب بعد از اون میده بیرون میرن این تا فیلر ور میدارن میبرن صاف میکنن اینو رو در میارن اسید معده فیل روی این یه اثری میزدارنه گفتن باشه بار گفش حالم به هم خونه نامرد این رو میخواستی بخورد ببین؟ نامرد اینه ناراحتم میشی او مشتری خودشو داره مشتری خودشو داره یا یه بنده خدای بود وزارت خارجه بود ما تو واسه دنیایی داریم رفته بود یکی از این کشور رو تازه رفتو، مسئولیت گرفتو، اونجا که رفت بود بهش هدیه بهشون داده بودن یه شیشه پرق داده بودن بعد این هم آورده بود رخته بود توی چای دستشوی بعد اکس شیشه رو گرفته برای من فرستاده بود و بعد من هم چند وقت بعد من رو دود. گفتش که اینه اکثر بر تو فرستادم بر کلی از مثلا رفقا و مثلا گفت یکی دیده و گفت خاک عالم بر سرت میدونی چی بودی خیلی <تصفی> آره دوتا دنیای مختلفه تو میخواید تو کدوم اتمسفر نفس بکشی خود نابود بکنی فرار باید بکرد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 باری که الله عجب حرفه قشنگ قشنگی خب بیان بینیم رفقه های اونا که هن؟ بینیم رو دو همین دوستشون داره دیگه اگر رفتم نزدیک شدم کی میشم؟ یکی هم اونا میشم اونا چی... چی کار کرده بودن؟ حق رو ناحق کرده بودن خون خوندیزی درست کرده بودن آدم کشی درست کرده بودن چی بود؟ دلیلش چی بود؟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 یکی برای همینه شیطون خودش طبقا چهارم می سوزه یک و دو سه داریم اونا دیگه که احتمالاً احتمالا خدا یک تایمای بخواد حال شیطان بیشتر تر بگیری می بیش اونا ببینی شیطان از اون می آره می دیگه اون دنیا میگه من خودم می از خدا نه اخاف از کی ربابا الی میگه شما خیلی احمق بودید گردنم نمیگیره رو اصلا میگه من پیامبر به شما وعده داد منم وعده کیو دستشو گرفتم به زور دادم خودمونتون حرف مفت میزنید خدا اینا داره در حق من ظلم میکنه همونجا خب جهنمی میگن کار این بود میگه کجا ایستاد هزار تا پیغمبر گفته این طرفی برو فطرتت میگه این بر عقلت میگفت این بر همه چی و من وایسادم به بودن بیا این و اومد این طرف بصنای خودم اصلی گذاشتم رو شقاق بسم الله بودو برای از همین روزی که خداوند فرموده است این پیامبر بیم دهنده ای از بیم دهندگان فیشین از سوره نجم و فرمود انما انت منذرون و لكل قوم پیش از زو این پیامبر و پس از او تا قیامت و نیز در هر دوره زمانی و هیچ کس مورد پیروی و اطاعت قرار نگرفته است تا اون که خداوند وارث زمین و آنان که بر آن قرار دارند گردد فوزه میگه از امام صادق درباره مفهوم لکل قومنهاد پرسید همیشون فرمود یعنی هر امام هدایتگر مردمان دوره است که در آن است هادن لکل قومن فی زمانهم امام زمانهم همین الان امام هادی من شما بامزم و به اندازه یک امام حاضر برمن شما داره اطمام موجهت میکنه. خودمونم میدونیم. عشنگ جاهایی که تک و تناشی میکنه. جایی که مختار بودیم تو انتخاب چیزی. عشنگ میدونیم. خودم بر خودم فیلم بازی نکن حالا الام اومین نکنه بی نداره. اما کلا سر خود نسته. نامرد نماش. مرد نماش. امام باقی فرمودن بودن. امام همان هادی و راهنمای مردم در زمان است.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 طالبه امام باقر باز می‌فرماند بله میگه از امام حسن امام باقر از امام حسن نقل میکنه که امام حسن رو باید فرمود که روزی پنجشنبه بر برای ما خود بخوان فرمود پروردگار و متعال متفرموده است ان ما انظارون ولکل قوم حال. که من انظار کننده هستم و علی هدادی است عرض کردم یا رسول الله شما فرمودید زمین از حجت خدا خالی نمی شود فرمود بله دل... کودکی بود امام حسن داشته میپرسید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 فرزندی به وجود می آورد که موسا نامیده می شود که هم نام موسبن امران است. چرا؟ قرارت نگیزیم. چرا؟ باید احمه اسم بکنی بچه شون ایسا نباشه موسا باشه اماما دیگه. چونتا اماما ابراهیم نداریم بسن نوح نداریم چهار تا امامون علی چهار تا محمد یه هشت یه نفر محمد علی بذاره اسم بچه شو از محسومی نست گوشتا باره بعد یه موسا داریم چرا نه حساب کتاب داره ها اسامی اهل بیج حساب کتاب داره این اسامی بسیار بیجه است در علم ابجد بسیار بیجه است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 چون تلفظ مهمه این که شما چه شکلی می نویسید اصلا مهم نیست شما سه او میخوای خواهی اس به نویس هر به نویس هر داری چی میگی؟ داری میگی سا مثلا موسا حتی قدیم ها اینجا آمی زاشتن از فاطمه چی میمونه؟ میمش که رفت تاها یبن تاها آل تاها طه ابجد شنده ه 5 10 ج را فاطمه ابجد شنده 135 ندید بگید سوره طه تاها چند تا آیهات داشته باشه 135 در سوره طه ماجرای چی اومده قصب خلافت هارون چرا نام موسا باشد؟ از ما چیزی نفهمیدیم فقط همین رو چون میگم نمازوزاتون روی چون این حروف مقطعه چرا میگم و یه رمز داره با حلویتش حرف میزن تاها و ما انزلنا لیکل قرآن شاهگار قرآن عمتی داره میگم اشکر کنید تاها یعنی کی بحث کردن بعض میگن صفت پیامبر. یکی از اسمار پیامبر. اونجور گفت آره دید تاها چیه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 تو زبان عربی سیغه مفرد مذکر مخاطب میشه تفعل دقیقا سیغه مفرد غایب مؤنس هم میشه چی؟ تفعل وقتی شما میگه تذهب یعنی تو مرد میروی همزمان آن زن میرود تاها فاطمه و ما انزلنا علیک القرآن ما این قرآن رو بر توی پیامبر نازل نکردیم لتش آه که او خودشو اینجوری به زحمت بندازه فرمود هفتاد بطن داره هر بطن نمیدونم یه وقت حداقل اقل داره میگه یبنه تاها به این فکر بکن یعنی تاهای کسی دیگه پسر تاها یا مهمه این اسامی مهمه من یک بودشون قرارم مثال بزنن نمی‌چش نام مادر موسی بن جعفر حمیده بربری است حمیده یعنی پسندیده هیچ کس اسم اصلیشون رو اسامی بود رو کنیزها گذاشته شده صفت اما ایشون یک پسرش میشه موسی بن جعفر اون یک پسر دیگه شون اسمش اسحاقه اون رو هم باز اسامی برانبانی اسپانیایی گذاشته شده ایشون اهل آندلسه، و از آندلس آورده شدن اینها به مغرب مراکش به مراکش در یک نقل داریم که اسم پدرشون ساعده می میتواند نمیگم قطویت نداره می توانسته که ایشون والده یعنی امام کازم یهودی بوده باشن چه شیعه شدن جان همیشونه در خرامه استان فارس در خرامه استان فارس نه اینکه حالا مثلا از این اسامی نداشتیم برای, برای امامو برای, برای فرزان نگشون چرا هست؟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 از آندلوس، از آسیای های ترکیه امروز حضرت نرجس سلام الله علیه با. از ایران شهربانو، از اروپا آندلوس بگیرید تا بینید جناب در وجود ناظریشون انگار او منجی همه هست نجات مهم نیست نیستانه برای من یکی هستن مهم نیست خب، اینشالله دقیق اینطور بشه اما بر عده هم که حتی اینا مهمه دهنه همون هم بسته میشه بعد تازه شما همین نفر اول میدونی باز نمیدون که مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام با حاجر که ازدواج کرد حاجر مصریه بشه حضرت اسمایل دیگه, دیگه نمیدونیم با چه کسی ازدواج کرد مخصوصا که متاسفانه اینا نام زنها رو چون زنها برشان اهمیتی نداشتن عربا نقل نمی کردن.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 به وجود میآورند آورند که نجات دهنده دوستان خداست او به مهاق یا مهاق غیبت میافتد به طوری که دیده نمی شود و از همین روی گروهی از صف او جدا می شود و گروهی نیز بر دین او ثابت قدم می مانند و می گویند اگر راست می گویی این وعده خدا کی خواهد بود و یقولون متى هذا بعد ان کنتم صادقین یونس چهل شنید ای کسانی که محکم میستید بر امامت او، اصل میرسه که ادهی میگن کجاست پس چی شد چرا نایمد آقاتون و یقولون میگن نمیگه گفتند اینات مهم قرآنه فعل مزاره داره استفاده میکنه و یقولون میگن متا هذ الوعد کوشی وعده این کنتم صادقین اگه خالی بند نیستید اگه راست گویید.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 امام صادق می مقصود از منظر رسول خدا و منظور از حاد علی است و امامات و امامان بعد ازشان این پاسخی است آنان که وجود امام را در هر دوره و هر زمانی انکار می کنن. پس باید باشد و باید زنده باشد نه مثل اصحاب کفی کسی تو خواب باشه نه باید زنده باشد و اثر دارد و کار می کند که ماها نمیفهمیم. خبر نداریم نمیبینیم مثل کی؟ خضر موسی اگر مأمور نشده بود کنار اون نبود میدید؟ پیغمبر اولوالعز نه خیر. او هم خبر نداشت هیته کاری خضر علیه السلام چنان مهرمانگی دارد هیچ کس خبرد مأمور بری کشتی سراخ کنه میخواد اون مؤمن رو نجات بده دارن اون طرف؟ کشتی های سالا میبرن بر جنگ اومدن دن کشتی این بله. ممور میشه یک جای کار دیگه کنه دیوار خرابی رو درست کنی باید کسی باشد این کارا کارای تازه چی پیاها وقت دارم میگم وقت بگیر نکنه چون ارتکرم دروعتم داریم موسا صبور نبود وگه نه چیزای عجیب قریبت قریبت قریب بود تریقی خواهید قرار بود ببینه و بدان که هیچگاه زمین از حجت خدا توهی نخواهد شد چنان آنکه امیرالمومنین فرموده است زمین از امامی که حجت خداوند را در حجت خدا را در زمین برپا دارد خالی نخواهد بود حال این حجت یا ظاهر و مشهور است مشهور است امام صادق امام علی میشناسن همه امامش امام رافضی ها کیه اگه میخوام فشم هم بدن دونستن <تصفح> گفتن الان بزرگ این شیعیان فلانیه هر چند مشیائیون فرقه می دونستن الان نگاه خیلی از این سلفی ها به ما مثل بهایاست دقیقاً همون نگاهی که ما به بهایا داریمونو ما داریم سلفی یا اهل سنت نا حال این حجت یا ظاهر مشهور است یا ترس، ترسان خائف یعنی ترس نه ترسو یعنی ترس از کشته شدن ایشون وجود دارد و مجال نیافته فرصت نشده زهر بزرگ. چرا که اگر چنین نباشد حجت های خداوند و دلایل روشن او باطل خواهد شد خود شما میتونید بزن زیر میز یا نشد که آقا ما فقاله در ادامه والملک امامه پس گفت در حالی که مردم روبروش شدند. ملا از ملام همینه یعنی پر جمعیت پر بود ملا یعنی بزرگان یه قوم با یک کلمه چند تا مفهوم میگه قران فرعون گفت به کی ملى بزرگان قومش رو جمع کرد باهاشون صحبت کرد یه فکری برای این موسا بیاد بکنیم می‌آم هم جمعیت پر بود، همون بزرگان جلو بودن، همونه که بدن زدن زیر میز، اونا همه چشتو چش بودن. آمامه، من کنت مولا، فعلیون مولا، اللهم وال من فاوله، وعاد من عاده، وانصر من نصره، و من خزله، دوست باش با هر کی رو دوست داره دشمن باش و کی با او دشمنی میکنه یاری کن هرکی او رو یاری میکنه به خزلان بکش به شکست بکش نابودش کن هر او رو قصد نابودی و شکست او رو داره در کنار قدیر آبگیر قدیر محل بود که مردم ها میسادن کاروان ها میرفتن اینجای بعد آب باشید تا بتونن سراعت کنن ایه. در سرزمین جخفه بیش از 120 نفر از صحابه و 80 نفر از تابعین این این رو نقل کردن هیچ گلم تو ممکن نشه هیچ کس اومدن بدن انقل تابوردن نه اما اولا یعنی چی مثلا دوست و این معنی نیست و اونم فلان دعوا شده بود امیرالمومنین با صحابه عمر جمع کرد و ممانه استلال اونها رو شنیدید دیگه سوال واقعا این که یعنی پیان بر استغفرالله متوجه نبود که مردم اومدن تسریح، تسریحش کردن و یا تصریحش کردن مگه اساسا امامت منطقی تر نگاه کنیم مگه اساسا امامت رو مردم انتخاب کردن بگه همین الان پس بگه کاری کنیم دیگه چه کاریه همین الان همه مسلما جمع بشیم یه 800 بیرون نفر صندوق رعی بذاریم اون زمان رو انتخاب کنیم به جناب برادرای اصحاب سنی ها بگید بگید آقا بیاید رغیری کنیم که ایمان بشه همون زمان بشه هم مهدی گمونتظرشان دیگه چی میگن ها خدا انتخب چطور تو یار خدا انتخاب میکنه اولیار شما عجب <تصفيق> به قران گیری کرد قران 124 بقره به حضرت ابراهیم میگه تو امام نی جاهل کله ناس امام من تو رو امام قرار دادم نه مردم قرار دادن مردم گوشت جنگیدن که تو آتیش میخواستن به نزن این هم عذیتش کردن پیغمبر رو شما تحیم میکن که امامو تحیم کنید کجا زم شدید پیغمبر رو تحیم کردید رای بذاریم صندوق رای بذاریم این پیغمبر رو با حالی میزاریم مشروب بخوریم و بذاریم این رای بذاریم قتل رو جایز کردیم بذاریم این رای بذاریم این چیز بوده کل اهل ثقیفه هشتاد نفر جمع شده فقط دوازده نفرشون رعی دادن کل مسلمین بودن کدوم شعره آقای شورا میکنن آدم میگه تو بعدیش هم کلن 6 نفر جمع شدن اون زمانی که دیگه مرز اسلام پاکستان از رسیده به آفریقا رو گرفته 6 نفر جمع شدن خلیفه تنگ کنن عجب از هم نیست، والله خدا بکلی من نمیدیم که شورا شورا کلا دوازدن نفر تو سقیب رای دادن تو شعرائی 6 نفر هم شیش نفر رای دادن، اسمش روشه تو جنگ تبوک فقط سی هزار مسلمان شرکت کردن سی هزار مرد مسلمان بعد از جنگ تبوک شرکت کردن همه اینام هم رفته بودن دیگه، اینا تو جنگ بودن این کار کردن اینا این آقای برگشتن هم تو کار انجام شده قرار گرفتن. مگه نبوت برائده اسلامی اومد شمشیر و کوف و شهر گفت من قبول نمی کنم اون که ما بهش قاقمبر چند دیدیم علی بود فلان بود جنگ شد دعوا شد گرفتن بردن یه در کشتن رو آویزون کردن به نواده قبول نمی کنم گفت من نمیگم علی چه رو این ریختن همونجوری بود کار آورده بودنش جلسه مریض بود و منو بردین جلسه ثقیفه گفت ریختن تو دنداش شکست افتادن روش دندش دیگه چند وقت بعد جنازهش بیرون مدینه پیداش و گردنش رو زده بودن گفتن جن کشت هست کلن هر چیزی اینا نمیتونه میناختن گردن جن یهودی ها دمال پیغمبر بودن پیداش کنن ترورش کنن رسیدن بالا سر پیامبر شیما دختر حلیمه دید جیغ کشید اومدن نجاتش دادن دنش چی گفتن دو تا فرشته یا جن بودن اومدن قلب پیامبر رو سیناشو مشکوفتن درمی آوردن شوسو شومی دادن دوباره میذاشتم تو دوباره تر می میکردم میذاشتم میرافتن حدیث شق و صدر برای ماله بکشن هر جنو حضور خودش رو خاصم ماله بکشن اینا گردن جن جن چه غلطی میخواد بکنه تا چرت ایده بهتون میده کار فیزیکی یعنی <تصفيق> گردن زده جن یا بابا امید جن خود شما بودید منطق اصحاب رده چی بودن رده از مسلمان ها از غذا امیران مومن قبول بگید نکرنه گفتن چرا این جنگیدن با اشون رو کردن با مالک شبن نوویری چیکار کرد خالد ابن ولید فرمانده سپاه خلیفه اول خیلی هم این سلافی خیلی چون دستای امیرانمان کسی که بستیم بود اینا که صحابه رو اینا که قبر صحابه رو میدید حجر ابن و در آوردن بردن بردن کجا چیکار کردن با خالد کاری ندارن خیلی جالب اصلا مالک ابن رو کشت مسلمان رو سرش رو بریز سه تا سنگ گذاشت و تا زنگ گذاشت و کله مالک رو گذاشت در رفت دیگ گذاشت روشه. غذا دروس کرده. همون شب با زنش هم زنا کرد الان موندن اون زناه رو چیجره ماله بکشن. کساره زناکار. میگن دولت صحابه اینم میره بهشت. اینم میره بهشت. او ببخش من این دین رو نمیفهمم. من نمیفهمم. همین بلا را سر خودتون می آوردن به اون دین می هم همکار با نوامیس خودتون می کردن میموندید اون دین می موندید. در جنگ ذات اون هزار تا چشتر رو برد دوستش دارن این خودش هم. بهت گفتم چقدر از چقدر از هر کسی داری پیش همونم من شروع شد تو تردید نکنید نیگه شون بود هرم ازت رو آقای وایستداد میگفت دیدید به ما مویین بسید فلان. اونو میشنو سیدش اصلا شما اون یارو رو نه سلفی معروف سلیبریتی هاشونه فیلمش هست با افتخار داره میگه همجنسوازه یارو هستم چی میگه چون تحتوشون رو برید جای جالبی میرسید حالا خیلی هم نرید برای جای جالب خیلی خوبی نیست ابو سفیان قاتی کرد وقتی از نجران برگشت ای این کی گذاشتید میشه یه نفر از بنی تیم برید بذارید تیره از این بدتر نبود در قراش آبرومار بردید پنش عربی نگاه کرد با داشت به اینجا بینم چیزی میگه کردی با اونم چیزی نمیتونستم بگن بنی بنیوم ایز شر میشه جنگ میشه خیانت و بنی هاشم نذارید ماله بکشن براتون بنی هاشم بعد پشت امیران اون میخوادی که حضرت فرمود گفت من که جای این امو عباس عباس گفتار درمانی میکرد فقط اهل گفتار درمانی بود با همه خوب بود جا این امو این داداش عقیل. آن امو حمزه و آن برادر جعفر بوده اینا نمیدونسن خب منو بخورن. گفتم بنی هاشم سر خط میکردم یادم اصلا چورا داشتم با ابو گفتم بیا اینجوری چی حرفایی میزنی یا حرف, می حرف خطرناکی ها نه همینه یعنی چی بند کنه بشه چقد از مسای نجران گفتم جزیه بگیره گفتم همش مال خودت جدان؟ آره من خوبیه خوب که فکر میکنم بنی تیمم تیره خوبیه در قرش. اگه دوستام شما پهلوان داشتید مثلا چرا فکر میکنین الان زمان ما هست اون موقع نبوده نه همین من همینو باز سوال دارم چرا اینقدر تغییر طبیعی میبینید فکر میکنین مثلا عصر فرشته ها بوده فرشته میادن اون زمین یکی بیل میزده یکی آب میداده یکی فر... این خوزه اولات از تو مخهتون اومده همین انسانه های پیدا سوختگیه که الان از اون موقع بوده همینا ادمو فعلهم ها فعل فجور ها و تقبا ها در درونت داری فلحمه ها فجوره ها و تقوه ها او بچه کوچک اینجا چنگ میزنه و شکولاته رو برمیداره این چالش نیستش فجورش بر تقوه هاش غلبه داره هر چی بزرگتر میشه تقوا میاد میاد بازدارندگی زشت جامعه فلان فلان فلان اینا رو به خدا فروید هم گفته وقتی نهاد و خود, و خود اینا رو توضیح میده چی میگه میگه نهاد اون اون کرکولی برین شماست خزنتونی که فقط میخواد ادامه حیات بده یا بزرگتر هم شید زشته این زشته اینا تضادهاشون هم با ما تضاد این سگانه است شخصیت رو میسازه دیگه که از هر کدوم چه دوزی باید داشته باشه ایریکسون بعد این رو توی هشت فاز میبره هشت لایه دسته بندی می کنه به ما نداره نمیخواهم بارده بسیاره باشه باشه بعد دیگه فرماشه پیامبر فقط همین دو جمله نیست من كنت مولا علی و علی مولا فاز علی و مولا این فقط نیستش که تا خود ظهور فرمان تو اون خطبه 11 بخش داره خطبه فدک خطبه قدیر بخش اول هم و ثنای الهی بخش دوم فرمان الهی برای مطلبی مهم بخش سوم اعلام رسمی ولایت و امامت دوازده امام اینا رو چی میگید گفت محمد پیامبر فرمود که حلیبی دوست داشته باشید به اونا دوازدهمین پسرش هم باید دوست داشته باشید با من نمیدونم که هنو به دنیا نه ایمده دی بی سال بعد من میخواد به دنیا چی رو دوست داشته باشم اشر عشر خلیفتن دوازده خلیفه اصلا حدیث از خلفه اصنا عشر تو مستند ترین ببین مستند تأکید میکنم مستند ترین منو به اهل سنتی قطعیه دوازده خلیفه الان موندن با گیگی شده ما دوازده تا رو جورد کنیم همین الان بسیار خلافه رو بشماریم یک دو سه چهار خلافه رو شدیم هنچ کی امام حسنم بعضشون میان امام هست ششم مواویه هفتم یزید یزید آورد قطعینا گیر نکردی پر چی پکر به یزید مگرد رضی الله ان کل سیستمش رو میره زیر سال اگه نگرد بسم الله بعدی بشمور یا اول فرض 50 تا خلیفه بودن من چه جور بگم 12 اومدن مال بکشن من خب خوباشون 12 بودن بعد ببخشید تو ادامه روایت میفهمات الی یومل قیامه تا روز قیامت 12 تا هستن علوخ خلیفه اصلا که دلایلی که ای حاضر بودم زنده بودن امام زمان اثبات میشه اما شیعه ببخشید فیکس قشنگ 12 رو داره ها درست دقیق به اسم و کنیه و پدر و مادر میشتوسه این کجا دلت میخواد بذاری در برخی از روایات میاد اصلا سوال دیگه برای چه همه خلفا بعد قریشی باشن از خودتون نپرد میدونی که کلا خلیفا همهشون از چی از قریشن این ترکیه ها رفتن ابو حنیفه رو برای چه انتخاب کردن برای که ابو حنیفه تنها کسی بود که حرف شاز زد گفت خلیفه میتواند غیر باشد عثمانی هم یه خلافت عثمانی میگفتن ما ادامه همون جانشین پیان بریم برایم که بتونن این بخش مال ماله بکشن همه رفتن هنفی شدن ترک همهشون شن هن تو کل دنیا شافعی نداریم آلا شزد نداری ندر ای باشه هیچ. نداریم از ترکیه تا چین همه هنفی هن همین که ایرانی ها ترکا شون شیعن و قبل از تشی و شافعی بودن نشون میده که اینا از اون ترک ها نیستن اینا آذری اینا زبانشان ترکی شده به مرور زمان در مجاورت ترک قرار گرفتن وگر وگرنه کدوم تبریزه به چش و درشت و اینا معروف هن ترکی ترکی مغولی یک شاخصه های دارد دیگه صده دلیل هست می گفتن حتما باید از قرش باشه خلیفه اگه دقت بکنید همینه بین بنی حاشم و بنی امیه چی شده؟ رفته آمده اون دوتای اولی هم دوتا تیره خیلی محدود و ضعیف بنی تیم خلیفه اول و بنی ادهی خلیفه دوم دیگوشتن کنار کلا. پسر حجاج ابن یوسف وقتی می‌خواست بیاد قیام بکنه خودش نمیتونست خلیفه بشه جانیش سقفی بود رفت با حسن مصنا بیعت کرد گفت بیا با اسم تو من را بیارم فقط او اجاز انتخاب شکر در انتخابات داشت اینجوری فکر کنید <تصفيق> او تحت صلاحیت شده بود آ چرا پیامبر واسه اینو نجات پرستی نیست به خاطر پیامبر بالای منبر فرمود بعد از من 12 خلیفه‌ام هم من قریش و در روایت دیگه اسمش کلهم من بنی هاشم اصلا پیامبر فهموند كلهم من بنی هاشم اینجوریه یه نفر سخنرانی کرد گفت آقا این بس توی تهران انجام میشه بعد اومدن بیرون گفتن آره ما فکر یه افغانستانی هم نشسته بود یه عراقی هم نشسته بود چی شو گهایید چیکو گهایید بعد ایرانی باشه تهران چی دید ایرانی بودن ای. اونا که غیر قریشی بودن بیان گفت هیچ دوباره اینم داد به قریشیا بعد از قریش باشه چرا باید از قریش باشه همین خجالت نمی کشیدم چرا خود پیغمبر نمپورست خدای من بودی این چه دینه نجات پرستانه یه پس پیامبر خیلی اعتقاد به دموکراسی داشت به شورا سپرد بعد خودش فقط بعد را ربیزا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اصلا یمنی‌ها برای چی کی داشتن از قریش‌ها برای چی نذاشتن علی عبدالله بن عباس گفتار درمان بره برای مذاکره گفتن قراشی بس دیگه اینجا هم قراشی؟ اینجا دیگه پیغمبر نگفته که نه بعد ما یمنی‌ها باشه گفتن مالک گفتن اون مرد میدان مرد دیپلماسی نیست دیپلمات بفرستید کی؟ او موسو عشق اونم قرشی نبود یمنی بود دعوایی بود بین اعراب اصلا ما توشیم جامعه شناسی رو ندونی چی از دین میتونی بفهمی تو باید رازیب اون جامعه قضاوت بکنی اعراب قرشی ربیعه یمنی اینا جنگ جهانی داشتن با هم اوه. کوری خونی هنوز دارن یمنیان نگاه کن وقت زیر بلیت زودیا هیچ وقت زیر بلیت حجاز هیچ وقت. بله اعلام رسمی بلاید به امامت دوازده ما باید خودتونو که اون به قرآن قسم ده من عربم هم نسید هم هیچی باید من که من دیستم رو شما هست نمیدونم تا اونجای که میدونیم نداریم ما خب حالا شاید چند بنام اجدا دارمون اگه بودم خبر نداریم حتی داریم. من که نیستم خیلی از ماها حیلی از جایی که ہمجنس هستیم هم نیستیم ما دیوونه‌ایم بیایم مثلا برای یه چیز بی خو... اصلا که خودمون هم نیست تعصبن بریم بگردیم پیدا کن تو هم همینجوری فکر کن تو بر میگرده مثلا به خلفای راشدین از نسل خلیفه اول یا خلیفه دومی یا مثلا خلیفه سومی یا مثلا اساساً از... نسل سیدی مثلا چی یه منطقی ما داریم یه عقلانیتی داریم من صحبت اخرته ارسناج ها حالا خداوکیلی مثلا باباتون شیعه نبود چی بودید به دین بابا هامونیم خب تو سنی هم همین دیگه یعنی جبر که جبر خانواده جبر زایشگاه خب چه فرقی داریم با اون بود پرستی که میگفتن بامگو بوتور میزت کرد ابا اون الاولون برو برو ابا اون الاولون بابام بود میپستن بابامو بزوم کنار ای قرآن علی قران قران میکنید میخونید اصلا یه دو دور بخونید این چه شکلی اصلا گیر کردیم بخش چهارم بلند کردن دست امیرالمومنین جوری دست حضرتو گرفت که بعد پای بلندتر بود دستم گرفت بوده رو جهازاش رو تو رفتن امیرام رو نوک پاشوای میستاد بخش پنجم تاکید بر توجه امت به مسئله امامت مسئله امامت ویژه حضرت سرفس میکنه بخش ششم اشاره به کارشکنی منافقین میکنه یعنی <تصح> همین پیامد چه جوری بود میگفت که نگفته اینو به من بگی هر کدوم خواستید من براتون میارم بگید امام بود با این خلیفه گفتم چش گفته باشه چش اما ولی گفته باشه چ... کدوم دوست داری دو چی دوستداری؟ چی میل داری؟ منو بده من برد بیارم این نهازا اخی و وسی و خلیفتی <تصفيق> چی باید بگه دیگه بخش هفتان پیروان احلمید علیه السلام و دشمنانشون میگه پیروان شیعیانشون رو میکنه بخش هشتان حضرت ولی است به صورت ویژه در موردیشون در خطبه قدیر سرفصل هست بخش مطرح کردن بیعت بخش دهم ده حلال،, حلال و حرام و واجبات و محرمات بخش یازده بیعت گرفتن رسمی یازده تا بخش کل قدیر من کنتم الله تو خودمون این چند نفر رفتن خود به قدیر خوندیم هیچده صفحه است اینو من نمیگم در بدایه و نهایه آورده که فقط تبری دو جلد سند قدیر نوشته تبری اونم باز ما نمیگیم اونا دارن میگن این چی میفرن پای؟ با فا اوها الیه به من کرد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیه که من ربک فی علی یعنی فل خلافت لعلی ابن ابی طالب اینجوری <تصفيق> پیامبر فرمی آیه نازل شد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یا عاصمک من الناس خدام تو رو حبس میکنه از این مردون چی میخواسته پیامبر بگه که خدا حبسش بعد میکنه آید مردم گوشت خوک حرومه نه بریم پیامبر رو بکشیم نه. جنگ گفته برید جونتون رو بدید نگفت نه نرفی حرفی بدبختا مسلمان‌ها میخوام میگم گوشت خوک حروم ها نه نمیتونی تعمل کن پرما گفتی رو زنده بگو نکنید کلی کسافات اینا جمع کرد گوشت خوک عرب خوک بوده بخورن اونجا تو اون جغرافی ها چیزایی میگن به قرآن من خیلی مدیریت میکنم خودم رو خیلی کلا کلم من خیلی خودم مدیریت میکنم میگم دیویست حرف میاد هی کنتو رد میکنه رد میکنه رد میکنه،, میکنه یه و یه دنجون لا میگه مخصوی تویتری ها نه فقط باشون آدم بعد عجر کسب کنم جا نگاه کنم سهی صد رفته شد بعد از آخرتشون میترستم و دروغ تهمت یعنی چی میگن؟ اینا ابن مسعود اینو سیوتی تو درل منصور میاره جلد رو سفیدی بسونه ابن مسعود میگه کنانق را علا احد رسول الله ما در زمان رسول الله ما اینو این شکلی میخوندیم این آیه رو یا ایو هر رسول بلغ ما انزل ای رسول برسون بلغ تمام کن تهدید داره نه لحنو نگاه کنید نقل و قولو تهدید داره اگر این کارو نکنی فلانا خیلی عجیبه کنانق رفی عهد رسول الله یا ایو هر رسول بلغ ما انزل الهی من ربک ان علی مول المؤمنین و لم تفعل الفا ما بلغ در میگه ما میخوندیم چون پیامبر آیه که نازل شد توضیح داد داخل پرانتز منظور همین الافی علی ابن ابی طالب بود دید براتون خوندم میگه ما اینجوری میخوندیم اصلا اینو فکر کنید برای چی خلیفه اول و دوم و سوم اینو گفتن هیچکس حق نقل حدیث از پیان بر نداره چون نقل حدیث یعنی این حرف برای چی خلیفه دوم هر کسی حدیث میخونه و باش خلق میزد میگفتن قرآن فقط باید حق دارید بخونید. هیچ هیچکس حق نقل حدیث نداره چرا در مورد منع حدیث یک نفر نیست تو اسلام جرئت کنه بگی نبوده انقدر تشت و رسوایش محکم افتاده بود چرا برای اینکه اندیس داشت برای اینکه همش باورقی داشت برای اینکه توضیحات پیامبر بود کاری که خلیفه سبه انجام داد جامعه قران در ادامه کار خلیفه دوم همین بود حسب توضیحات پیامبر قرآن قرآن علی چه فرقی داره با قرآن هیچ فرقی همین قرآن باورقی داره عزیزم کابرقیار چی کردن میان دو تا فرق داره قرآن هم میرن قرآن که همیر عزت علی جمع کرد که نشست قرآن رو جمع کرد دیگه بعد از پیانبر اصل رو بعد حفظ میکرد این حافظ اونه اون حافظ اینه ا... اسقر... حافظ سقل, سقل اکبر حافظ اکبر حافظ سقل اکبر حال امام میگه نگید سقیر و اکبر و اکبر. بگید اکبر و کبیر مثلا. این سقلنه دیگه حجیز سقلنه یا این به غلط از هست یا دوتا ویژگی داشت یکی این بود پاورقی داشت قرآن نکی جزایه باشه، نه سراحتم این توضیح هاشیه داشت دو شهن نزولی بود یعنی به همون ترتیبی که نازل شد چون اون ترتیب قرآن ترتیب تربیتی دیگه الان مثلا این قرآن شروع میکنه بعد از هم یا ابلفض میخور به بقره در حالی که دقیقا بر عکس ناز شده بوده و تواصل اون آخر مخری یا <تصفيق> ام جز سر جز سی اون اول بوده خیلی آشه بر طرف تازه مسلما شده آ داد من با کافر ها کنم با قول یا ایال کافرون اون لاع ما ت بود و همتون میکن.قلاه وله حد اللهظ اوعمل لم یاد بالا میراقل اوضو رو بر به م... ن کوتاه مختصر سریح. همون اول میخوره به سوره بقره بعدش میگه الان نساء احکام زنان برو برو جان همش خیلی هم سخت قراش همش کنه اون نداره به دست انداز میفته طرف اشکالی نداره نه اصلا نباید به این سمت رفت بعد،, بعد تو برخی از برخی از, از شعیه معتقدن که میگن که پیامبر میفرموده این آیه رو ببرید فلان جا بذارید چون دستورش شده بر مبنای دستور پیامبرمون برخی حتی من معتقدم اما خلاصه این که شما یه نفعه مسلمون کنی با بقره مسلمون نکنید بگم یکی می خواهد یکی مسلمون کنه برداشت بردش گفت برم نماز بخونه و گفت من نماز برداشت من تکرار کن داری شروع هم دو خون بعد بغره نماز که تموم شد گفت دادا شما خیلی بیکارید دین خوبی آقامون تاست بیکار هست ما کارزار زندگی باید گفت نه نه به خدا قسم باسه سوره خوبی انتخاب نکردم. و چیکار؟ نماز بعدی رو فیلو میخونم یا اول فز او بقره گاف بوده انقدر بودید. فیل نصف روز بعد بخونیم لا بود. آره با بقره کس سوراخش ندید همین شروع ببین نگاه کن خدای تو داره میگه کافر میگه لکم دینکم و لی دین تو سی خودت مسیح خودت. خدا یکیه خدا زایده نشده نمی زاد فلان هیات میبینید؟ خدا بی نیاز از اینا نماز می خو... می تو دینم باید نماز بخونیم خدا رو ستاش کنیم البته خدا بی ها. الله و سمد خوب همین رو بگی تو نماز این قولوالله رو باید من توی که رکبت ها بخون کتاها رو هم انتخاب کردیم دیدید مثلا حالا باید برید حج کاری با میکنن که اصلا یارو شروع کنه خوندن ها؟ بعد لازم میشه نیسته سوره و کامل بخونه. یه هف وسط یکی میره تو هف وسط یکی میره همونجا میره بیرون. اصلا یک بزیه. آره خیلی. بعد چیه؟ <تصفح> وسط نماز خدا شاده. اشالله خدا توفیق بده اینا ریشه کنده بشه. یه حج درست بریم گیرمون همون <تصفح> وسط نماز سوره میخونه که قایه سجده داره. وولات دیگه جا سوری ای هم دو خونه جا سوه ای ی های سجزار همه میرن تو سجده سجده رو انجام میدن پاامشم بقیه نماز آقا ملت گییت شده نه یکی خم میشد این سربازار گم گم پاش او اون یه می گرفتون بلند می کرد میکن چ میکنه یه شیر تو شیر شده بود یه مالزی یه کنار من بود من واقعا نمیم جلو خودم مرده بودم از خنده من بخده اول سجده روفت این بر من آسانونی بود چی شده؟ خب؟ باشه صاحب زگو بلند شو فکر می کنم مثلا چیزی شده نمازو بخین بعد کلا بلند شد بریم کجا میذیم بریم جاش کنه اونجا به باشین وقت نمازو بخون با خود برای چی من نفهمم سجده چی بود گوی آی سجده نمیتونی عربی نمیفهمید چرا چی میگه جان من شما توف افتو آره اصلا جمعه میدونه حتما فکر کنم میدون سجدا میرفت جمعه یه دونه سجدا می فهمیده بودیم بچا جمعه ها اومدگی داشته باشید ما هم قرارقاتی کردیم بقیل لحظه با تو با هم می رفتیم می, می رفت تو چیز اینو بگی به کشش بالا اون یکیو بله سیوتی دورالمنسور جلد سبیدی و سنابش فعلمو معاشرن ناس آی مردم بدونید معاشرن ناس همه ی مردمی که جمع شدید زال کفی که این در مورد ای وفحمو وعلمو به فهمیدش، بدونیدش اِنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ بَلِيًّا خدا او را نصب بر شما ولی و امامن و امام. امامن یعنی دوست داشتن ها؟ اشیه ها و امامن فراض طاعته فرض کرد، واجب کرد على المهاجرین والعنصار و على الطابعین بر مهاجر و انسار و تابعین تابعینی که ما میگین بعدن میگن یعنی کسی که سعابر نده این با منی نیست پیامبر در مورد مثلا اویس قرنی فرمود "ان خیرت تابعین رجلن یقال لهو اویس این در زمان پیامبر زنده بود هیچ وقت پیامبر ندید اما پیامبر به او سرتیفیکیت داد در یمنی پیشمنی سعی مسلم هم آورده گشتم نیدونه از یه که کتاب اهل سنت بدو کردم و علال بادی و الحاضر اونی که هست و نیست. و علال عجمی و العربی بل عرب و غیر عرب عجم یعنی غیر عرب چون مهمترین غیر عرب ایرانی ها بودن افتاد مدل ایرانی شد و الحر و المملوک و صغیر و الكبیر و علال عبیز و بزرگ سیاه سفید آزاد برده بنده و علا کل موحدن. هر کسی که توحید داره بدونید خدا فر الله مازن حکم او حکمش قطعی است مازیه گذشت تموشت جازن قوله حکمش مجاز جایزه نافذ امره امرش نافذه ملعون من خالفه ملعون هر کی با مخالفت کنه مرحوم من او و صدقه خدا رحمت میکنه هر کسی از اون تبعیت کرد و او را تصدیق کرد فقط غفر الله له خدا میبخشه او سمع او و لمن سمع من بعطاه له از او ازو بشنوه از و اطاعت کنه ولی اینا هم هستو عزیز معاشن الناس ان عليا والطيبين من ولدي من صلبه بدونید که علی و پاکان از نسلش از از او هستن اما از ولد منن هم الثقل الاسقر اون ثقل اسقر که گفته بودم براتون اینه تارکم فکرم سقل همین ثقل الاسقر اینو و القرآن الثقل الاکبر واحد واحدون من هما منبعن عن صاحبهی هر کدوم از اونا خبر میده از همراهش خاصی خبر از قرآن بگیری بر از او بگیر و مفا... موافق له دقیقا موافقه بر همین مبنا میگه هر حدیث بده که مخالف قران بکوبید به سینه دیوار و ضربو علج دیوار معصوم فرمود. گو حدیث دیدید که دید دید دید. نمیخوره با آیه قرآن بگوشو دیوار. لم یستر قا حتا يردا ال الحوض یا ال حوز. اینو از هم جدا نمیشن لنگ افراقا الان نشون بدید بسم الله. حدیثا سقل این تیکش دیگه. يردا ال حوز. ازونه چی این با کجای افق کجای شهر دیگه اومده مشهد اومدی ها از نه مشهد هم نیست حراتی عمرتره چینی سر 100 سوده نوت پس نوره نجی از مجلس اومده لنیف یعنی چی یعنی همین الان باید کنار هم باشه بس باید امامی داشته باشه از اهل بیت پیغام برام باشه الور علیش جالب بگم چرا امام رو حس نکنن که از نسل حضرت علیه من چرا چون حکومت زمان رو به خطر نمینداخه امام قایبه گفتن این تیکه از حدیثمونه بی نداره اون که آخری از نسل اولیشون نه اینا نیست دومی اینا دیگه امام میزه آخریشون از نسل پیامبر باشه از اولاد علی و فاطمه خب اینجا پیامبر میفرماد بو از و... سلب من از صلب علی از ولد منه آخرین چون کسی و حکومتش رو ظاهرن خطر تهدید نمی کرده اشکال نداره مسئله مسئله قدرت بردار من تا مملکت خودمون همه شیعه خیلیشون مقلده رهبر انقلاب ندیدید جنگ جهانی شد <تصفح> ندیدید شما بین طرفداره برن خودهای پزشگیان هم نمیگم که حالا خورده اصلاح طلبه بین طرفدار قالیب و جلی چی شد اگه نگاه کنی و چرا فکر میگوین مثلا اون موقعی چیز دیگه بوده فلان بوده باهم در چه حدی الان تکفیر دارن میکنن همون تو این شبکه هستن شرم آور دیگه خوام بعد بعدجدی رهبر انقلابم میاد یه تأکیدی هم میکنه نکته میگه هر کدومم بخش خودش رو میگیره این تیکش با با شما بودا اون یه تیکشی اون فلان ولش کن اینو داره میگه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 انهم امناء الله فی خلقه، امناء امینهای خدا در خلقش هستند. و حکام او فی ارزه، حاکمانش روی شد. الله وقد تو، آی مردم الله آی, آی آی آی آی آی حواستون جنبشه، آی وقت تو، امانت داری کردم. الله وقت بلغتو تو، به تهش رسوندم تبلیغمو کامل کردم. الله وقت اسمعتو شنوندم.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 خدا به من گفت منم دارم میگم واژه هم دارم میگم روشنم هم میگم همه تونم هم بدونی آمیرالمومنی جزء نباید باشه و نیست الالات تحلو حلال نیست کسی جز او لقب آمیرالمومن بر خودش امیر آمیرالمومن بعدی له اهدن غیره برای همین شی حتی ب... یه نفر به ام... امام صدر گفت یا آمیرالمومن گفت فقط در مورد ماست جایز نیست برای اهدی جزء او استفاده بشه روا ت می یه کسی خودشو آمیرالمومن جز امیران اون چه میشه دیگه؟ میدونید؟ اون تکفیری هراتون گفتم تاقصه چی کاره بود؟ آره. هر کسی جز امیران خودش امیران مومینه بدان ند روایت داریم چون کار است و جالبه بری مورد کسایی خوش امیران ندونستن در تاریخ تحقیق بفهمید حتما بله باشه اصلا بعضی حالا توی یه... سخنرانیم در مورد امام هادی یه خوردی نارو من باز کردم این بخش هنر نمایی هاشونو کارشون به این جای رسید حکم دادن فعضاتال از سفر سفر طولانی شد علای که به ذکر. یه رفتی توی مسافرت گیر کردی طولانی شد آره جهاد نکاح و بعد به هم رم نمی کردن می گفتم الله اکبر حله بعد شیشتایی باییه می سید یکی دست تو کلت نذاریه الله اکبر نگید <تصفح> عواظ جم پر این بر می فرماد مرتبه بر من نوازل شد که اگر اینجا این کار بعد من ببین اول توی مکه میگه کجا میگه همین اومدید نگران بود پیامبر همونجا شمشیر میکشن و باید شمشیر میکشیدن اون روز خدا قلبه ها رو دست و دل ها گذاشته باید چون ببینید م... بدونید قدیر گوش کنید اجازه بنوشید قدیر صورت ملکی حقیقت الالصبر ربکم قالوا بلا مگر کسی در روز الالص تونس بگه نه ها تونست تونس بگه نه همه گفتن بله. منافقان گفتن قالب. بله بعضیاتون آشکار کرد، بعضی اون تکتون کتمان کردید. علکی گفتید بله برای چی؟ برای اینکه نعمت اسرار دوست داشتید. خدا هم دوباره می‌خواد خلقمون کنه. تو عالم اروا میگه ببینید می‌خواد برید اینجا خلق بشید حسید. حتما خوبه. قل می‌بافم گوش کنید. تو به ربک من خداتونم. بله. خدا فرج در پدر سوخته‌ای. من تعدیلاتونو دارم می‌بینم. همه ها این مخصوص انسان ها نیست بر کل هستی این ولایت الله بر کل حسدی یعنی بر جنیان فرشتگان همه گفتن بله اولین کسی که لورف شیطان بود شیطان کافر بود قرآن میگه ابا وستک برا ابا کرد استکبار برسی کان من الکافرین بود از کافرها اصلا نمیگه سار من الکافرین شد از کافرها که تازه اگر هم میگفت شد از کافرها یعنی کافر دیگه هم هستند شد از کافرها اما سراحت شما خیلی اشتباه میکنید حرف بزه تو دهن قرآن خودش داره که کانم در مورد پسر نو هم وقتی قرق میشه که کانم مغرقین او از غرق شده ها بود یعنی کسی الان غرق میشه که قبلا غرق شده ایمانش مشکل داشته به شیطان که کانم کافرین با یه سجده بکی به خلیفت الله لورف زد بیرون اصلا آزمون امامت کوچکترین تردیدی در بین هم پیش اومد و بدونید بعضن رشک بردن ای کاش ما هم یک حالی بهشون داده خدا که نه نه حالی گرفته که نکرد سعادت آدم افتادن دو مال درخت سیب و گلابی اون چیزا بودن خدا دنبال این شما او شجره شجره قرآنی میگه شجره مبارکه ابراهیمی به امامت رشک بردن او عجب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 صورت ملکی زمینی الاس تو به رب که همه گفتن بله کسی جورت نگه بگه نه قدیره میگه همون کسی که بدن زدن زیرش همه اومدن بیاد کرد پایی من نگران با قطعا شمشیر میشنه خونه که خودش قطعا قطعا قطعا صورت بگیره میشه مثلا یه جا دیگه دو دفعه و اگر اینجا انجام ندید تموم فما ولخت رسالته پیامبر برنونم و وایس داد بعد محکم هم میگه ببینید من خدا به من گفت دارم به شما میگم به خدا شهادت باش ادای تو و عزه تو واضح گفتم با همه جور مدلی که میسم دیدید آقا همین این علی ها ببین دستش گرفتم بردم بالا کسی دیگر نمیافت دارم فیزیکی تصویری نشون میدم ها حاضران به غایبان برسانن چه چه چه برای چه برین زدن زیرش چه جوری وحشت تو زیرش من داره؟ اونجا نمیتونستن حتی یک نفر میگن اونجا انقلت آور برای نمونه میگه شاپسنگ میخورد تو سرش <تصحص> میگه اگه اینجوری یه سنگ بخورد تو سر مازرت هامو جو شاپسنگ میخورد کلا <تصحص> یعنی چیزی دیدن که همه غلاف بودن و ترسیده بودن اون شاپسنگ خودو کلا مون قرآن اینو جور دیگه هم گفته در مورد یهودی ها میگه عهد و قبول دارید میگن بله چیکار کردم تا خدا توضیح میده میگه البته وقتی هم بالا سر اینا نگاه داشته بودم <تصفيق> <تصف> آیا قرآن میگه کو بردم بالا آدم میشون بله قرآن میفهم دور رو گم په دستوخت من خبر دارم اینا عاشق گوساله هایشان از محبت گوساله نوشیده است گوساله که موضوعیت نداره خدای آپیس مصر باستان فرهنگ مصر جبت ای جبت یومنون اول جبت و تاغوت همین ها گفتم یا اومنو بل جبت بطاقه دید چی ریختم به هم خوش اون بیستواد ها ترمینولوژی کنن تازه حالا یکی از این تفاصل آورده بود خوبه گوش کرید گفتم برد هم بکن ابن کسیر میگه من کتابی از توری دیدم دو جلد فقط اسناد عدیز قدیر رو جمع کرده جلد 14 صفیه 849 بدایه و نهایش اگر ناقل بیش از 15 نفر باشن میشه متواتر اینجا 80 نفر نقل کردم مولا یعنی چی؟ بسم چقدر مونده؟ من یهو دیگه وقت دارم میخوام پایید یا بذارمش جلسه بعد بریم خسته نمیخوام شما که دارید گوش میکنید اینو اصل بحث اینجاست اما افتاده تو بخش دوم صحبت یعنی انتهای بحث ممکن خسته شده باشید اینو کات کنید قشنگ برید سرحت کنید دوباره اینو بخشو گوش کنید یعنی همه چی ما قدیر ماست مولا دوست سرپرست غلام ارباب اولاب تصرف این معنیشه اخه دوست داشتن نداشتن که با امر و نهی مگه درست میشه هر کی دوست دارم باید دوست داشته باشه دوست نداری؟ اینقدر میذارم تو دوست داشته باشی. یاریم تو گفتم من دوست داشته باشه تو دوست ندارم. اینقدر کوتاه کت تا تو من دوست داشته باشی. خیلی منطقی نه؟ نه همچین کسی به طور شما بخوریم فدو خیال منجر تو بگه سلام علیکم من دوست نیستم. ببخشید چه جالب است من به جا نمیارم دوست هم نداریم نه؟ غلط کردی چه ودیویم؟ درازش کن. تا میخوره بزنی؟ باید دوست. چاستش میاد. من بحث من دارم اگه بیرونشونشون کن فوش شده. معلم اماده دست مبصر گرفته برده سلام رو نمیکن من معلم هستم اشون مبصر اعلام بکنم بله چشم قرآن باید عاشقش باشید این دیگه چیه مو ببخشید زنگ قبلی با هم دهوامون شو سر ساندوی چه من این جفان داخت من با فوز رفتم رو زمین مثلا من بگه برپا چشم بگه برجام چشم دوستش ندارم چجور باید دوستش ندارم باید عقل خدا وکیلی. چرا چیزی که خودتون انجام نمیدید به پیغمبر خدا نسبت میدید؟ یه دروغ بستن نیست؟ عجبه؟ نه، انقدر میزنم دوست داشت بعد این همه مقدمه چینی؟ آهای مردم، خدا اینجوری گفت، فلا اونده هیچ وقت دیگه پیغمبر اینجوری رو حرف نزده، همه یه باره چی؟ همه اینو برای دوست داشتن که هونم تو دست خودم نیست؟ یه نفر نبود برگردو یراست این همه اعتراض ما صحابه دیدین تاریخ پر اعتراضات صحابه است اینقدر که آیه نازل میشد آقا خجالت بکشید اصلا اینو مراعات پیغمبر نمیگه کلر رو مثل چی میرفتن تو خونه پیغمبر سین استو چق سین است فشاب تا تا دوتا در میره ول یا باشی آیه نازل شد ای پیغمبر خجالت میکشه به شما بگه من خجالت نمی میشه دهیا کنید که سب در میزنید عزم بخواید آیه آیه آیه آی قرآن این خجالت بکشید خیلی داریم هم پیغمبر اوزان اینقدر حرف گوش میکنه اینقدر بهش انتقاد میکرد اینقدر هر از ننش قرار میکنه اینقدر پیغمبر حرف میکنه اسمش کشت گوش آیه قرآن اومد که برای شما همین گوش باشه بهتره ب بعد صد هزار نفر ملت رو جمع کردید آقا باید دوستشو بشه یا رسولو گرفتیم رو توی زل آفتاب سه روز کشیده کشده ملت یا اونایی که رفتن رو برگردونید بعد این جدا می شدن چند رایی می شد اون هم بگی بیا همه جمع بشن یکی زایده یکی پیره همون ما حج رفتیم تا همون حج 60 نفر مردن از ایرانیا پیر بود یا رو گرما. اون من اسرتون نیره چرا <تصفيق> سرتون بده خوبه برید حج یه دور برگردون بود بعد دور می‌زد من تو عمرم کسی اینقدر نفرین نکردم که آل سعود من تو اون هفت کیلو مت اضافه گرفتنم نفرین کردم خداش ببین بغل این فقط این پیرمرتیر زنا بودن که همه افتاده بودن خیلیاشون مثلا هند و این جور چون پشت مسلمونان نیست کشورشون چندان زیاد مسلمان زیاد داره اینا که میان اصلا صابم وای نمیسته کشوره اگه مرد میگه به جننم که مرده کشور اسلامی که نیستش خود مشکل داره مسلموننا به زور مرراتشون رو میکنه متوجه شدید اینقدر یه دور برگردن با دور میرففت چادرامون دور برگردون رو بسته بودن ما رفتیم مثلا از محدود خارج شدیم یعنی اصلا سوال شرعی برام پیش اومد جسب خیلی یعنی شما فقط باید هر چند قدم چند قدم خیص خالی میکرده خودتو خ ادامه بدی نه چیزی میتونی رو سرت بگیری نه ایک وضعی دیگه خب تو اون گرما تو اون گرما همه رو نگه داشتی میگم و زن زاوو داری تا چیه، چیه. همه, همه رو جمع کن بره. دوستش دارم <laughs> <تصفح> نخواد قبول بکنه طرف نخواد قبول بکنه باز مثال بزنم یکمه امروزش کنم یه جلسه بوده مشهد بین جلیلی و گفت صحبت سر اینه که کی بماند کی بروده دیگه چه ها نقل شد پس خواهشم میشه امروزی ببینید رو. من غذابت نمی کنم واسه هیچ کدوم ها. هیچ میخوام دیدید دی اینا رو دی همین هر حی حاضر زنده ای تمام افراد حاضر زندن تمام کسی که تو جلسه بودن همه زندن هم مدل نقل قول اومد بیرون از این که سی دستا نسر زنگ زده تو داری تا نمیدونم سردار قانی چی کار تو داری تا این که به اون یکی به دادا زنگ زده گفت و بره بپرس ببین راست میگه داری اوه الام آشان الله که ماجرای انتخابات باید یه زمانی باز بشه برای شما آره هم هم بایست دادن همه چی ببین علیه دوستش دارم. این علی هم دوستش دارم ما بیا بده میخوام نشون بدم بعد اینقدر مهمه که رسالتش به همین بستگی داره هیچ کدوم ها اونام صداشون در نایمده اینا ببخشید در ادامه چه مقدمه بود؟ این من کنتم اولا مقدمش چی بود؟ من اولا بکن من انفسکن آیا من اولا هستم به نسبت به خودتون یا شما؟ آیه قرآن خ... مردم آیه قرآن خوندن چی بود النبی نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم من اولا نیستم من... گفتم بله آیه قرآن رو قبول داریم این اعترافو گرفت بعد فرمود شعرا برای این شعر گفتن شعر حسان ابن ثابت هست مثلا یه بخشاش میگه رزید من بعدی امامن و حادیا امامن و حادیا هم امام یعنی دوست دارم هم هادی یعنی دوست هد دارم لغتنامه یکی؟ برادرها امامن و هادیا شاعر شعر. برید ببینید شعر اون شعر تو چه حوزه شعرها در... شعر در مورد قدیش شعر گفتن برید ببینید شعرها در مورد چی صحبت کردن گفتم دوستت دارم میدونی این کار دل، اصلا این چیزا گفتم اصلا خودی هم میمینی ای گناه من نیست تقصیر دیمه قبول دارم اصلا محبت اصلا دست خود آدمی دل کشش پیدا میکنه اگه که خوشید میاد که بدت میاد دخترم مثلا برش خواستگار اومده بابا نگاه کنی مهندسه بچه خوبیه نمازخونه اصلا به این چقدر مهند اصلا این داماده اصلا دامادی که مادر باید درسش بدنه نجم دین شریعتی اصلا خوبه اینو میبینیش آره زنش میبین. اون به دلم نمیشه بی خود باید دوستش داشت باشه خود خودت اینجوری شوهر میکنی خودت اینجور دختش شوار میدی <تصفح> برای یه ازدواج نه باید عاشقش بابا باید, باید دوستش داشت <تصفح> باشه وگرنه عذاب اقاب خودم همه،, همه این فشت جهنم ها همه حواله فقط دارم بحث عقلی میکنم کنم. این حدیثه فلان اون یه آیه قرآن دارم برات میگم. بعد جالبه خیمه زدن. گفتن تمام آدمایی که اینجوری بعد بیعت کردن. زن ها گفتن ما چجوری بیعت کردون گفتن اوه خب. این باید یه کاری انجام بده که بیعت طلب. از راه دور ما قبول نداریم. خیر باید کار فیزیکی کنه. نا محرمه یه تشتاب گذاشتن میرن دستش تو تشتاب می اومدن تشتاب دستش میگیرن تو آب. سه روز طول کشیده بیعته سه روز اون همه جمعیت یه استادیوم آزادیه نا همینو باسی بود بگم دوست دارم میدونی بعد برید بیعت کنید مبارک باد مبارک بادم باید بگید فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لکی ابن عبی طالب مبارکت باشه، مبارکت باشه هم نمیتونه اصبحت مولای شدی مولای من و مولا کل مسلمن و مولای کل مسلمین فانزل الله اليوم اکملت لكم دینکم و فلان و خدا برا همین این امایه رو کرد <تصفيق> بعد آقا خیلی مومن باید دوستش مؤمنین با هم دوستن آره قبلا قرآن نفرموده بود مومنین با هم دوستن؟ نداشتین؟ مؤمنون بعضا همون اولیابه هست؟ نمید دوست داشتنه فقط همین جا بود این چه مدل دوستی که اگر هم دوستی باشه به فرض چه مدل دوستی که فرق داره باره ها امه حضرت زهرا خود امیرل به همین اشاره کردن و قدیر به عنوان سند خودشون حققانت خودش امراون بعد ۲ 25 به خلافت رسید؟ حالا بالاخره من خلیفه شدم می ماله بکشید ننظرارید کارتون کردید هر کاری از دستتون برمیآد کردید بالاخره شدم. حالا خداوکیلی کدوماتون قدیر یادتونه شیعه و سنین رو نقل کردن بود تعداد اختلاف نظره یه گفتم گفت نه باید پاشید وایستید تو جمع بلند شدن وایستیدن کلام پایین بود یه خلیفستیه انس ابن مالک اون جلو نشسته بود خادم پیغمبر سرشن نخبه از غذا روزه تو همین جلو بودی جلو جهاز بود چون خادم پیغمبر بود دوربر پیغمبر می چرک.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 برید ببینید جناب و با چی مورد خیلی مظلومه امیر المومن خیلی نداریم رو دست امیر المومن مظلوم ما نداریم هیچ کس اصلا دعوی مظلومیت ما اصلا به خاطر امیر المومن تبعی اوست گفتن باقزن لعبیک همه دعوی سر مولاست من نجف که میرم چهار ستون بدنم میلرزه بدترین روزهای زندگی من والله به الله. روزهایی بود که من گفتم تو با میرم اونتون بدترین روزهای عمرم بر من گذشت. من حرم بقیه امامام میرم میگم ما مخلصیم ارادت داریم دربست میدونید اما بابا یه چیزی هست حرم امیر المومین امیرم رو به بومبت بایی میستن میگم آقا همه یه ها سر شما بود همه دعوه ها سر شما بود به اون خونه حمله کردن که حکومت از شما بگیره امام حسن زدن به خاطر شما بود امام حسین زدن به خاطر شما بود الان هم شیعان تو میکشن به خاطر شماست تو شاهد باش ما پشت بلنگو داریم میگیم اون اینجا هممون من به نمان از اینا میگم شما همین ایچه پیمان بر فرمود قبول داریم اشخد و انعلی هم ولی یالله شهادت میدیم ما رو با او محشور کن و کسانی که در مقابل این همه استدلال نمیخوان به با همونهای با غیر او محشور کن. عمادان میفرماد من اگر غدیر رو نگفته باشم 23 سال نبوتم حبط میشه. و این لم تفل فما بلغتر رسالتم هم که رسول نیستی اصلا. شما دیگه رسول نیستی؟ مردم اون بنیان های اسلام رو پذیرفتن، بنیان اسلام علو خمس، چهار تاشو قبول کردن، پنجمی قبول نکردن. الولایه. اونو قبول نکردن. همان اتفاقی در زمان موسا افتاد. برای گرفتن البهرف، قرآنشون رو بگیره. برگشتید هارون عزل کردن چی جالب آیه قران همین سوره طه میگه ها سوره طه میگه اینا سوره طه میگه سوره طه خیلی عجیبه اینو گذاشته بودم یه جایی شوالا اینجوری نمیخواستم بگو بوشم باشه گذاشتم تو اونجا که تو میرسید بگه یبن تاها اونجا بذارم براتون باز بکنم سوره طه سوره طه خیلی عجیبه سوره طه اعراف اینا ادله همن توضیح میدن ماجرای هارونو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 چرا گفته اجله؟ چرا گفته خط به ما خط با کیاس هم چرا گفته ما لما سوق دفی عیدی هم وقت بر او انهم قد ذلوا؟ چرا؟ همه اینا این گفته بوده جالب اینا میگن بلکه میشه صحابه یه پیغمبر این کارو رو کنن؟ ببخشی صحابه اون پیغمبر تونستن ببخشی اوز میخوام قرآنم گفته من شرمنده شما میخوای اصلاحیه بزنیم رو قرآن؟ میخوای کنی این آیاتو به تیری جقباتون بر نخوره؟ میخوای؟ بعد برگشت دین موسا بدون جانشینی هارون بگو خود موسا بگه به در نقاید و القل الوا یا اول فضل و القل الوا پرت شد اون طرف اولش شما شما مصلمون به شو نیستید <تصفيق> و القلالبه یه یه و قران یا اطرات گفت بعد من جانشینم هارون آیه قران هارون خلفنی فی قومی هارون خلیفه و جانشین من تو قوم من باش میخوام برم برگردم رفتن سراغ گوساله ای گفتم میه خب افنان سراغی گوساله بعد مردم میگن نمیدیدید لایو کلمم نمیدیدید کلام نداره فقط همین جیر ویر ویر میکنه گوساله سامیر صدایی میداد بیرون نمیدید صوت با محتوانه میخوره خب چه چی منظور چیه کور بودید برگشت خوشحال خوشحال یا بلفز اینا همه دارن گوساله میپرسن اما گوساله ها رو دارن میپرسن طبعیتش رو قبول کردن گوساله رو و هلقلالبا قرآنشون رو انداخت چی بگم؟ حالا قرآن سر نیزه بره؟ <تصفيق> طارق شجی تکرار بشه خوی دوست داری؟ میخوای آفر بده؟ نمیشه سر پا... نیزه نزیر دست و پا بره زمان یزی زیر دست و پا هم رفت تو فتمک واقع مد... خشم دینه چی دست و پام رفته نگران نباش چی دوست داری؟ همون برای سفارش بدی منو بده منو باز قیمت حساب شده تا میخوری سفارش بده چی دوست داری؟ چون انقدر حق آشکاره اما منقدر مظلومه ها لیکرد نه؟ بعد میگن نه اون بالاخره بابا پیغمبر اولوله لازم مده اونجا میشد نه ما همه صحابه میرن بهش چطوری آخه با هم جنگیدن ببخشید این صحابه هر کسی که پیغمبر دیده باشه تو اهل سن ایش میگن صحابه سعی بخور میگن صحابه, میگن صحابه. میگن هر کی پیغمبر سلام صحابی میشدی جدی میگم میدی پیغمبر اون پیغمبر بچه پنج ساله الان میگن صحابه میگن چرا میگی این از بنی صقیق بوده بنی سقیف آمده،, آمده است در قرآن حجتول بده و, و رفتن شرکت کردن چون همه شرکت کرن پس لابد دیده پس صحابه پدر پدرتو در میارن بهش حرف بزنی بعد به صحابه حرف بزنی تکفیرم شدن دیگه میکشنت کشنه تو و میگه ببخشید من عضو میخوام این منافقه که تو قرآنن تو مدینه بودن و پیغمبر ندیده بودن چشاشون مثل اینجوری از زیر ببینه رسول الله ما کور باش دور باش صحابه نشوی. <تصفيق> این منافقا بعد سیخ داغ و تنور داغ و اینا رو داده بهشون اینا کیان؟ ببا عظم خوام. و ببخشید یه صحابه امیرالمومنین، یه صحابه معاویه با هم جنگیدن، از هم کشتن، جفتشون میرن بهشت. خدا شاد سر کارت نذاشتم این واقعیت به امیرالمومنین همه شو میرن بهش فضولیش هم به شما نعیمده کتاب هم نوشتن حاویه گفتیم اون چاه آتیش من سب بقید صحابه و المعاویه هاویا امه هرکی سب بکنه به صحابه حقیقی پیامبر برد جایگاهش در آتش مانقبود بله جالبه همه اینا برای موسی نه والله <تصفيق> خدا حالا اسم موسی چند بار تو قرآن میاد 146 144 شش بار نه بار جدی پیغمبر خود ما چهار پنج بار یه تا اسم خودش اسم محمد اومد پنج تا تمام پس اینقدر موسا موسی شرط داده برای چی؟ خدا این گرد موسی خیلی دوست داشته این موسی رو بگی ابراهیم خدا آوردی موسی موسی 70 درصد موسی اضافه کنید مرشتا چون موسی عینه پیامبر ما رفت سمت تشکیل حکومت حضرت ابراهیم نتونست حضرت حیثا به سلیب میخواستم بکشن نوه بنده خود خودش مونده کشتیش خرار سوار کرد نوه سوار نکرد والا رو دمیجا دمیجا خیلی درد داره فکر کن جا پسر نوه باشی داره قهب موشم جلوه قلوب, قلوب داره آب میخواه خره بالا داره باید دسته کن میده <تصحیح> ماهده 67 یا ایو هر رسول بلغ ما اونزل زلایک من رب مان لام تف الفا ما بلغت لب.. رسولت بلغ آیه سوم که من الاناس ان الله لا یحده القوم الكافرين اینشته اش خب باش یا ایو هر رسول یا ای ایو ها بازم ای آهای با تو هم که خدا خیر پیغمبر میخواد بگیره بله نازل بله حس بگیری یا یا ایو هر رسول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 بیتونست آقای بگید یا آیوهن نبی اون موقع تو میپرسیدی اصلا یا ایو هر رسول تو الان باید جزید برسونی ارسال نامه رسوندن یه بسته پستی بسیار مهم است میری بهشون میرسونی بسته رو باز میکنی توجیهشون میکنی شیر فهمشون میکنی اینا <تصفح> امضا سر انگشت میگیری یه دونه نرم افزار داری نصب میکنی آخرش میگه آقا قبول م تعهداتو آی اگری آی اکسپ آره قبول میکنم همینجوری شما نه شما میزنیم نیکس نیکس میکنیم میریم جلو نرم سوال این فلان فلان شد همینجوری بودن ها تون تون گور گور نیکسار زدن فینیش تمام ریستارت رال ریستارت چه شوا باز جهنم خود الهی من جهنم ببین یعنی باید یه چیزو حجت و آشکار تمام بکنه این جلسات جلسات خوبیه و بدی‌ها عمقش خوبه پدرم هست. بد بر بد خوب بر خوب. کجا تموم کنه؟ این صحبت سخن برسد دست یه نفر. بعد این اگر حجت اشکاری نداشت باشه نمی‌گم هفته من کامل کننده اوت. من که خودم درمیاد حرف فوعلمامون بود. بعد جالب دقیقا میگه نبی خبر نه رسالت بعد برسونید. بعد دقیقا با هدایت تمام میشه. بعد من ربک یا یا بلغم انذرم من کی؟ من الله نه. من ربک رب قصه قصه تربیت قصه قصه رشده قصه مربیگریه بگو مربی ربک فرموده بگو من ربک رب بگو من خدا گفتم تحکید کنی نگم من خود من از خودت داری میگی ها دیگه چقدر باید است و جالبه از آخرین سوره هاست حج و نماز و معاد و توحید و اینا همه رو گفته چه چی چیز جدیدی میخوای بگی آیه رو که میخونید حالا <تصفح> میریم جلو باید چیز نمونده تمام بذلش کنید تا که سکن رو نگاه کنیم ورژن رسالت بلق علی بله غیر علی ببینیم چی شده امروز کره زمین بلق علی رو دیدیم تو ماجرای غزه بله غیر علی را هم تو سوریه داریم میبینیم خوشگل تراش تو راهه ای مردم در مورد سوریه میگم روزهایی در پیشه یادتونه سر ماجرای خانم مهسا امینی گفتم گفتم اینا اتفاق افتاد تو ایران نه خیلی عجیب بود اینا فانتزیه پیش اون چیزه که دنیا پیشش قذره دیدید لبنانو دیدید سوریه رو میبینید سور اینایی که باز تا الان دیدید نسبت به آن چی که در پیش است؟ نمیگم هیچه اونا دنیایی در پیشه ده این دهه این دهه ده. تو سوریه اتفاقاتی بیفت فقط آیست. ان قد اینا از هم بکشن انقدر از هم بکشن که فقط ببینید شیعه خون داد من نمیخواستم این مشتبه. من بر مبنای سنت الهی تفسیر و تحلیل میکنم وقایع خیلی وقتا که از عناصرش برمیاد شیعه حقونت خودش نشون داد الان خدا فهمد یه دقیقه شما بیاید بیرون باهاشون کار دارم داریم میبینیم دیگه دو ورژن اسلامو دیدیم اسلام علی اسلام منهای علی اسلامی که علی اسلام تزرون میگه که علی هم به که از 120 سال تا پیغمبر نه یکی از ده تا اشاره مربع شده توستو همین همین همین عرزالو باشی همین زومبیا همین یعجو جو مجوش چند وقت پیش تو ادله بیادونه مسجد درست شد. درسته؟ مسجد اسمش چی بود از زهرا. اومدن چی کردن؟ سنگ فرس کشیدن کردن مسجد العزت و لله درسته؟ نکته جالبش میشه؟ اون مسجد به نام کی بود؟ به اه دیگه اهل سنت صحابه را استفاده کنن قبلش حتما بعدش یا قبلش نشان احترام استفاده میکن میگن رضی الله ان. رضی اگه زن باشه رضی الله عنها همین همی سلفی رفته بود تو حرم از زنب دیدش میگو؟ میگو اینجا رو میبینی؟ سلفیه اینجا سیده می عز از زینب رضی الله عنها هم میگفتیدید صحابه سز زینب پیغمبر دیده متوجه شدید چرا این از ز... این مسجد زهرا رضی الله عنها نداشت ها توهین بود اون چه علاقه داشتونه که ساخته که اسم مادر یارو زهرا بوده نظر کرده بوده از عرصم برای من یه مسجد بسوز اونجا این هم مثل مادرش گذاشته رو اونا صاف کردن <تصفيق> اسم ننه یار بوده <تصفيق> <تصفيق> با این اورانگوتان ها طرفی شما اینا ورژن اصلاح شده بعد 1400 سالن با یه همچین جماعتی طرفی بعد از 1400 سال اصلاح تازه شدن این ببین چی کشید امیر با اینا ببینید چی کشید رسول الله با اینا حالا اینقدر تحکید لازم داشت بایدون من؟ ببینید امروز ورژن اسلام علی و اسلام غیر علی آیات قبل و بعدش هم خوبه آخه جالبه. آیات بعدیش اهل کتابو کافر میدونه اگه جلوی این حق هیچ‌کس کفران کرده ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل اگر اینا تورات و انجیل رو برون مبنا که ما نازل علیه من رب هم ربهم اونجوری که خداوند برشون نازل کرده بود اقامه میکردند اگر این کار میکردن از فراز سربذیر پاهایشان روزی میخوردن هم اینو برکت میدادیم بعضی از ایشان منهم امتون مختصده بعضی از اینشونا مردم یانه روین و کسیر رو منهم صائمات اما اکثریتشون بسیار بد کردارن ساعه ما یعملون بعدش قل یا اهل ای... الكتاب لستم علاشن هیچ نیستید هیچ چی نیستی لستم علاشن ما آدمی حتی توقیم و تورات و و ما انزل الی کم من رب بکم الا آنچه که از جان پروردگار بر شما از تورات و انجیل اومده نازل شده است بر پا دارید. آنچه از جان پروردگار بر تو نازل شده است بر طقیار کفر بیشتر اینها میافتادین میگه پیغمبره و لایزیدن کثیرم منهم ما انزل الک من ربک میگه اینا می دقیقاً ببین آیه قبل آیه بعد کفران با آیه همون یهودیت کتاب لای اومده و این کارو نکردن کافر شدن یعنی چی میخواد میگه موسی شما هم قبل نکین کافر میشین میگه میتونن چرا یهودا دارم لعنتشو میکنم اگه خدا وجود نداره چی میگن والله آنها هم قتلو به ما قالو ذهنت بر نبوده حرفایی که میزنن خدا به کشادشون این همه فوشی که خدا تو قرآن قرآن به یهودیت بریشی میگه احشی کردید ف به ما نقصهم میساقهم والله آنها هم و جعل نقلوبهم قاسیع دل سنج شدی تهدات نیم پذیری حق بر تو نبگم نمیفهمی تکون تو نمیده منمیشی من که خودم قشنگ فهمیدم یعنی عهدی با خدا می‌بندم میشکنمش قشن میفهمم که بی‌تواضع میشم حساب بی یه عمر شما حتما اینو حس کردید یه قولی میدیم مثلا نماز را اینجوری یه عهدم ساده می‌زنه زیرش قشن سنگ دل شدن میفهم حالا در این حد که دیگه هیچ سیاق آیه نشون میدین همون ادامه تورات و انجیل قرآن این آیه سه بار نازل شده در حج سه بار نازل شده ای آیه در مسجد خیف و امرو هم در قدیم سه روزم ایام ولایت گرفتن سه رسول کشید بیان بعد جالب اول از توهید و معاد بعد رفتن خودش پیامبر بعد اعتراف گرفته بعد جمله معروف یعنی چی آیه بعدی م... مائده سه هم مهمه گوش کنید جالب تماشوتون آخر آیه است حرمت لک علیکم المیت بر شما حرام شد گوشت مرده دم خون لحم خنزیر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 وان به وسیله تیرهای قمار قسمت میکنید که این کار خود نافرمانی است زالکم فس، یهوی یه بواسطه اینها یا اصل الذین <الیوم> کفروا ال من دینکم امروز کافران از دین شما ناامید شدند دیگه امیدی ندارم بتونم بزنم به زمین از اون از, آن از آنان نترسید فلا تخشواهم از اونها نترسید از من بترسید درس تو دل بوده که چی؟ که بگی گوشت خوک حرامه <متصفح> قبلا اینا رو نگفته بودی یا رسولله تو بقره یادت رفته خدایا اون روز چی بوده؟ به بهتون بگم مردار نخورید آجا <متصفح> الیام اکمل لكم دینکم و اتمم تا علیکم نمین امروز دینتون رو کامل کردم من نعمتم تمام کردم تمام همه نعمت رو بهتون دادم تا عشق دادم هیچی نمونده بیاد و اسلام را دین شما برگزیدم اون اسلامی که از اول به ابراهیم گفته بودم میاد ما كان ابراهیم یهودیم ولام نسرانیا بلکان و حلیفن مسلمان امروز تمام شد مرا... مبارک زور باشه ابراهیم گوشت خوش میخورد گوشت مردار میخورد موسا میخورد گرفتیم آره خدایا در همین حد استدلال منطقی کافی به من دیگه داریم برای بچه های دو سه سال استدلال میاریم فکر کنم الان خوش. بعد ادامه یهوی پس هر کسی که در گرسنگی بیچاره مان بیان که قصد گناه داشته باشد بدونه که خداوند خب اینا که گفتن گوشت مردار نخورد اما داشته میمردی یا جزوری مثلا عقل میچه میگن هیچ چی بود این وسط پاشای معلومه نگاه کن این مالونه یه چیزی وسط اومده تو این خیلی بحث کردن انگار این وسط اضافه شده برقی گفتن اصلا این آیه جاش اینجا نبوده اون آقایون که داشتن جمع و میکردن اینو گذاشتن اینجا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 الیام یعنی چه روزی؟ روز بهصد روز بعد، روز خندق. این سوره مائده جز سوره های آخره که. یه امروز دیگه هم داریم الیام. الیام اجملت لكم دینکم. الیام یئسل الذین کفروا دینکم. ای، نبام خیلی میخورا.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 امروز دینتون کامل شد خدا اینو قبل داره همه رو گفته بودی حرامه چیه چیز جدید امروز گفتی که کامل شد همین من هم بگو اونا که تکرار بود میدونستی من فکر کردی من مسلمان سال آخر بعد 23 سال برای من بیا وقت با کوشتو خوک یا به دست سختا نه قول میدیم نخوریم آها پس کامل شد ممنون مردم پیام همین دمی همین حجه که زدی ما افتادیم رفتم یه سیخ خوب خوش گوشت خوب زدی کجا گوشت گوسمند زل نه دیگه نبات بخور آ نمی نبات می‌خوردیم آها الیام دی ال الیام کامل شد دینمان نمیتونه بهسد باشه بردار اهل سنت میگن این روز بهسدت چرا چون بهسد شروع دینه کلی از احکام مونده چجوری میخواد دین کاملشون بشه کجا معیوز شدن کافران کافران خیلی پر انگیزی داشتم بعد رو اهود و خنده کجا کافران معیوز شدن خیلی پر انرژی کارش تمومه چلی نفر بفرستیم تو خواب بکشیمش کجا معیوز شدن چه کسی معیوز شد تمام کافران آینده هم معیوز شدن نمیتونید دنیا رو بگیرید آیه سه نمیتونید میدین چرا چون دنیا عالی داره <تصفح> تمام نمیتونید معیوس باشید نمیذارن این آدم نمیذاره همونی که روز قدیری در سوچه بردن نخواهد گذاشت باباتون رو در رو ببینید بچه های هم هستن. تو قزه سونی داره کشته میشه یمنیه عراقیه لبنانیه ایرانیه داره سوریام که سوریه بشکن زدم برادرها دو دستی تقدیم کردم میفرماد نه ترسید ازشون از من بترسید الان هم ما میگیم از زنیستا اشکی نه ترسید به ترسی خدا حالتون میگیره نه تا بزنید بزنید بقیش با خدا کاراتو درست بکن حتی اکثر کاری که میتونی بکنی انجام بده بزن محکم هم بزن اربدم بزن ده تا مضافه زروش باشید تو ببینی چی میکنه به تو چه بقیاش؟ تو منطقه تو بچین زمینی تو زانش زانو رو تو ببنده آیا تو کرسی هم بخون باشید ببینی چی میکنه اسرائیلی ها رئیس دستگاه اطلاعاتی آمانشون رو عوض کردن فقط به خاطر اینکه تو تحلیلشون گفته بود ما کنسولگری ایران رو بزنیم ایرانی‌ها جواب نمیدن یعنی جواب دادنه ریخ به هم سیستمشون میزنن یقینا میزنن میزنن باید شرایطش فراهم بشه یکی چرا بعد صادق میزنن نمیزن شرایطش باید فراهم بشه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 شروع کردن قورقور کردن ما رو برداشتی آوردی حالا اونجا چهار تا پسرامون هم سر می‌بوریدن مگه چی میشه دیگه اینجینی هم بود که تیک نام عربا به تاز داشتم چه گرد و خاکش می اومد انما يا ربي خدام با منه راواز خود موسی نمیدونست چه اگه موسی میدونست که ذهنری نیست برای هم علم خزانه دارد بحث علم امامت و اینا رو کُلش بحث وقتش نیست خوبه، برای که دهن خیلی رو ببنده، مطالبه مردمی. سوختم، بله. جنگ نظامی بخوای بکنین، جنگ نرمه بکنه. نتانیاهو رو نگاه یه نگاه گوش کن. یه خانمی رفته توی کاروانسرای پخشه زنده لایو یه دونه یوتیوبی کنسرت رفت. تو کنسرتش زن... چیزو خونده. از خون جوانان وطن لاله دمیده. بعد نتانیاهو موقعی که داشت آتش‌بس لبنان رو اعلام می‌کرد، گفته من مجبورم بعد رو ایران تمرکز کنم. چون میدونه ایران وعده صادق اون اطلاعات داره. می‌دونه یقیناً خواهد خورد. میگه ما با تمرکزم. دیشب اومده یه ویدیو داده بیرون. آی مردوم ایران پولتون رو دیدی حمر حرم کردن 12 روز فلان کردیم اونجا چی شد فلان دارال علم ما با شما دعوا نداریم. زان زندگی آزادی. یوهی. زن زندگی آزادی زن هم دوره میاره اون وسط. بعد ترام مسابقه کرد بازش پرسیدن با تایم مسابقه کرد. آقا جنگ می‌کنید با گفته گفتم هر چیز محتمله. با روسیه نه نه نه ما به زلنسکی حق نداریم اون شکلی استفاده کنه. اونجا این پاسو دیدین این تا این طرف بعد این در آستانه این اعلام این قانونه چیزه هجاب و افافه خب همه اینا کناره هم یعنی چی؟ <تصفيق> یعنی ببین اون حمله نظامیش پیوست رسانهی دارد پیوست فرهنگی دارد من شما باید پیوست فرهنگی داشته باشه باید دوشته ببینید الان سوریه اتفاق افتاد اصلا برای مردم ایران آیه مردم نگاه کن یک دونه عدوات نظامی نزاشتن الان فقط کلاشین سوریه. همه رو مزه زدت تو روز تو یه جا تو یه دونه فرودگاه المزه میگن 150 تا پنجاه تو بومبه سنگشکن انداخته اون زیر میدونستم مشک اطلاعات داشت اصلا بومبایی که برسه دست هم نسرول دارند هیچی نمون سوریا الان چیزی نمون کلاشینکوف کفت پیش روی هم کرد ویستی کلومت اومد الان اون ارتفاعات بسیار سوغل جشی و مهم جبل شیخو گرفته. که اشراف داره از این بر, بر دمشق، از مار اشراف داره بر جنوب لبنان. همه رو گرفته میگه که من ریسک نمیکنم. خب آقا اینو گفتن آزاد کنیم بدبختام نجنگیدن. دو دستم که تقدیم کردن، هواپیما ور گذشته بود یارو ندی تکبیر افتستم سوار خرمجیان اونو گاوپمانش از سعود. همونجا نمی‌دونه چیکار بکنه. اینو چهجوری باید بره تو؟ راستو تلیکوپتر نشسته بود یوتیوب باز کرده بود، یوتیوب می‌خواد ببینن چهجوری کار میکنه. دو دستی تقدیم کنید چرا شخف راستی چرا دانشمنداشون دارن دونه دانه ترور میشن؟ این وقتی های ایرانی هستم فعتبرو منطقه بلغ ای مردم برید به مردم برسونید به فکر و برسونید بگید نگاه کن هزینه. حالا اگه بشار اسد میمود اجازه میداد میدونی که از اختلافات ما و بشار اسد بود یا جولان حمله کنیم، بریم کار اسرائی یه سره کنیم نمیذاشت می گفت نه میاد اینجا جنگ شروع میکنید اینا ما, ما سوریه میمونیم و اینا گوه کجا میمونید دوازده سال پشت نه ترس <تصفح> نه دیگه بنده خود حق هم داشته جاهایی اقتصادش بمریخته بود فیلان بود خسته شده بود ای بس و اطلاعات غلط بشیم این ها خیلی نقشی فا کردن بدونید دارم اماراتی میگم روی کار کردن رو اسد و سیستمش اماراتی ها کار کردن بیشتر از هر کس دیگه. نده. حالا فکر کنید اسد می جنگید نصف این اتفاقات دیگه چیکار میکردن؟ دیدی جنگیدین نصف سوریه نابود شد اگه نمی جنگیدی این بدبخت ها با بسته پیشنهادی اقتصادی اومده بودن اماراتی ها. کاری نداشتن نتانیو گفت ما کاری نداریم پنده خود رو من, من کرد الان که کلش رفت الان اسد الان برگرده به قبل چی میگه میگه ای کش نمی رفت. اما بدونید اون انتخاب نمیشه زمان برگردی مردم اون راه میرفتیم چه جوری میشد بیاریم دوباره زمان میری جلو برگشت که نداره که اینو مردم بگید الان وایسیم جنان تانیام مثلا به جنگ مثلا چهار تا ماسیب ببینه این دیدی اومد گفت کاریتون ندارم نه جنگیم بیاد همینجوری همون کار که با سوریه کرد سوریه چی آقا اصلا ما سوریه کینه ای نداریم به بند بند ایرانو تجزیه میکنن به بند بند به ملکول ملکول. ساید شدید؟ این باید من مردم گفت پس تو قصه سوریه کلی عبرت وایستید بذاره زمان بتونست حرف من بمونه دیگه خدا به دست اینا به دست همینا کاری با دشمنهای شما کنه فقط شما انگوش بدهن بمونید هشت سال شهید دادیم خدا که بیاد بیرون ابازه بیاد بیرون دوست ندارم دیگه انقدر چیز بشه ویشتون ايش گلم با امریکا صدام بکشن با این تو چیکار دری مونتم مقابل صدای خدا رو نمی شنیدیم و ویشتون این یا اینستون خرجو تو کویت هم دیگه امریکا اومد صدامو زد دیگه از اون موقع دیگه رفت و تحریم و پدرش در دار. اومد آخرش هم مثل سگ از تو سراخ کشتنش بیرون روزی گذاشتن دارش میذارن که ناش عمدن فور خدا کاری که ایرانی اینو دارزه اون بغل دو شده فارسی میشنید کلمات فارسی یا معاونش الان مسابقه میگه عمدن کنار صدام فارسی حرف که بفهم ما ایرانی ها چشینوت کنیم. خدا سرش. بعد یه فاف دادیم دیگه فاف سوریه الان بود. کم کاری شد هر چی بود خیانت بود هر چی بود دیگه مثلا تهش میخواین اینو بگی دیگه. خب؟ وایس تو نگاه کن فاو کلا رقابت میدم دادش نگارون چه شهری؟ واش خدا به دست اینا چیا به من و شما خواهد داد؟ اون ورده شما زنه واشید ببینید به چش خوچ و واشید فقط اون موقع افتخار اسم میگه الحمدلله که ما مؤمن به این خداییم چقدر <تصفح> <شقه> خوبی خدایا اللهم عجل لولیک الفرج ولا عافيه <تصفيق> تنس وجعلنا من خیر عوان هیوان ساره والمستشهدین خدای ما رو با محبت امیرالمومنین ولایت ایشون این کشیه ایشون باشیم از این دنیا ببر و محبتیشون، ولایتیشون و تشعییشون زندگی بکنیم خدای همه کسایی که اون کسایی که اولین بار تو اجداد ما شیعه شدن ما به شدن، شیعه شدن اونا رو ویژه ببخشو بی و از سر صفره خان امیر الم... قرار بده خدای ما رو از مسببان اصلی و خیر فرزند امیر حضرت ولی از ارواح و قرار بده به برکت سلواتی و بر محمد و آل محمد